بسم الله الرحمن الرحيم أ لا مراه تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبین سوره مبارک یونوس هست سوره یونوس هم از سوره های مکی قرآن مجید هست از نظر ترتیب پنجاه و سوره هست که نازل شد آن حضرت صلی اللہ و وسلم و که در این سوره بعضی از جریانات و واقعات بیان شده یکی از اون جریان سیدنا موسیٰ علیہ السلام هم بیان شده اما یکی از اون جریانات که جریان قوم یونس هست و دارای عجائب و شگفتی هست به این خاطر این سوره نامگزاری شد به نام یونس چون این قوم وقتی که برایش عذاب آمد به محض اینکه علائم عذاب را دید فوراً توبه کرد فورا به سوی خدا تعالی برگشت و رجوع کرد الله تعالی توبهش را پذیرفت به همین دلیل اسم این سوره سوره یونوس نام گزاری شده خب ربط این سوره با سوره گذاشته و مناسبت این سوره با سوره گذاشته اینه که در سوره گذاشته همیشه اصلش در قرآن مجید برای نفع شرک و اثبات توحید دو مسئله همیشه مورد توجه قرار بوده یکی اینکه ما معتقد باشیم بغیر از الله عزوجل هیچ متصرفی هیچ مدبری هیچ ربی وجود ندارد کسی که بالاخر گرداننده امور باشد مدیریت همه امور را بد داشته باشد بغیر از اللہ هیچ کسی نیست، یکی از مباحث توحید اینه دوم اینه که معتقد باشیم در محضر الله عزوجل هیچ شخصیتی وجود ندارد نه از فرشتگان نه از انسانها نه از جنات که بتواند شفاعت غالب بکنه شفی غالب بشه شفی غالب را خدمت شما توضیح دادم قبلا ارز کردم چنان شفی که خداوند از او بیم داشته باشه بر خدا غالب باشد یا محبتش غالب باشد یا قدرتش غالب باشد چینی شفی وجود ندارد خب حالا در سوره قبلی که انشاءالله خواهیم خاند اثبات شده با دلائل اقلی و نقلی که بغیر از الله متصرف و کارساز و مدبری وجود ندارد حال در سوره یونس ما می خانیم این دیدگاه غلط و خیال فاسد مشرکین را که معتقد بودند خدایان ما شفی هستند برای ما شفاعت می کنند این, رد، این را رد میفرماید الله اللہ تعالی و می که برخلاف رضای خداوند عز و جل هیچ کسی نمیتواند تواند کچکترین شفاعتی بکند تنها صورت شفاعت در صورتی هست که خدا رضایت بده در ابتدا این صورت می ما من شفیعین الا من بعد اذنه چرا اگر اذن الله باشد امکان دارد بغیر از اذن الله هیچ شفیعی وجود ندارد لذا این موضوع در این سوره بحث میشه این سوره ارز کنم خدمت شما که ابتداش آغاز میشه با تمهید همراه با ترغیب. الله تعالی میفرماید الف لا که از مقطعات است تلک آیات الكتاب الحکیم این آیات, آیات کتاب حکیم هست قبلا خدمت شما یک اصل و یک ظابطه را ارز کردم که وقتی که سفت کتاب حکیم می آید بیانگر این هست که بیشتر در این صورت دلائل عقلیه بیان میشه وقتی که سفت کتاب مبین می آید بیانگری این است که بیشتر در سوره دلائل نقلی بیان میشه. در اول سوره یوسف از تلک آیات و کتاب المبین اینجا از تلک آیات و کتاب الحکیم این نشان میده که بیشتر تو این سوره شما با دلائل عقلی روبرو می و خدای تعالی دلیل را آغاز می فرماید با استفحامی با سؤالی اکان لناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم آیا برای مردم این چیز باعث شگفت و تعجب هست که ما وحی کردیم سوی مردی از آنان منهم بشریت رسول از خودشون یعنی بشر هست فرشته نیست نور نیست ملک نیست از خودشون ما فرستادیم هم ما چرا فرستادیم با چه مضمونی با چه پیامی با این پیام که ان اندرین ناز این که مردم را بیم بده از عذاب خدا مردمی که گرفتار اوهام و شرک و اباطیل هست اینها را بیم بده و بشر اللذین آمنو و مجد بده بشارت بده کسانی را که ایمان آوردند انا لهم قدم الصدق عند ربهم مجد به این بده که برای انها قدم صدق است نزد ربشان قدم صدق یعنی چه؟ یعنی قدم های صادقانه یا تقدیم های صادقانه که شما پیش از, پیش از خودتون فرستادید هنوز نمردی، هنوز پیش خدا نرفتی پیش آپیس بعضی چیزها را تقدیم کردی نه؟ عبادات بیریه انجام دادی تلاوت خاشعانه و خازانه انجام دادی صدقات برای خدا دادی همه اینها را پیش اعمال صالحی الذي قدموها اشاره به اون هست این یک قول است البته قال مجاهد قدم الصدق امام مجاهد که امام تفسیر اسمی فرمات قال مجاهد الاعمال الصالحه التي قدموها قدم الصدق یعنی چه یعنی اعمال صالحی که پیش فرستادند این یک تفسیر تفسیر ابن کثیر نه گفته الذي قدموها اما بعضی میگویند که قدم صدق یعنی مقام صدق جایگاه صادقانه ببین بی یک جایگاهی هست در دنیا بعضی کس میکنه دروغین است میگه اگر رئیس ولی 4 روز دیگه میت پایین میره تو زندان چهار سال دیگه وقتش تمام میشه میره مثل مردم عادی زندگی میکنه با اتوبوس رفت آمد میکنه لذا این مق قدم یا این مقام مقام صادقانه نبود مقام تزویر بود مقام فریب بود اما مومنین پیش خدای از زوجل مقام صدق دارند که هیچ زوالی نیست برایش. هرگز ازش پس گرفته نمیشه این تفسیر دوم هست قال عطا ای مقام صدق لا زوال فی مقام صدقی که اون مقام صدق هیچ زوالی در اون نیست یعنی منزلت رفیعت یسبقون الیها و یقیمون فیها مق... قدم صدق یعنی جایگاه رفی که خدا به انها میده و از هم دیگه در اون مقام صدق پیشی می گیرن لیزا مومنین را بشارت بده ای محمد صلی الله علیہ وسلم که انها در چینین مقام صدقی قرار می گیرن وقتی که این مطالب رخوا رسول الله صلی الله علیه و بزیبائی با زیبایی بیان می‌کرد و هر گروهی را جداگانه برایش تعریف می‌کرد و کفر نگاه می‌کردند دهانشون وا می‌موند نگاه می‌کردند اونها دیگه توجیحی نداشتن میگفتن این عجب جادوگری هست علیه یاذ بالله به پیغمبر میگفت قال الکافرون ان هذا لساحر مبین ان است بر کافران بجایه اینکه از این سخنان درس بگیرند و از این سخنان در واقع عبرت بگیرند و بیاین بر مسیر حق کافران گفت این هذا لساحر مبین این جادوگر آشکاری هست الله تعالی از این به بعد دلائل ربیان می فرمید دلائل عقلی دلیل اول بر اثبات تویید دلیل اول عقلی ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض همانا رب شما الله است آن الله که آپ آسمانها و زمین را في سته ايام در مدت شش روز در مقدار شش روز این چند بار برای شما تفسیر شده در اما شش روزش چطور هست تقسیم شش روز شما در حم سجده خاندید خلق الارض في يومين دروز مال زمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام اي في تمام اربعه ايام باوندروز 4 روز تمام مشه ان رتي بيغن دحو ارض كي ارزاق وخراقيها وما يحتاج انسان هره در زمين ذخيره بكوند وبعد فقضاهن سبع سماوات في يومين هفت اسمان را در ظرف در دروس پس این میشه روز اما ترتیب والارض بعد ذلك دحا شما قبلا قاندید لذا الله می فرماید خلقت السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش سپس بر عرش مستوی شد بر عرش نشست که از متشابهات هست والله اعلم اما بسیار میگن کنایه از پادشاهی و قدرت الهی ازال است الامر تمام امور را مدیریت می کند مدیریت این جهان مطلقاً به دست پروردگار است نه غیر پروردگار مامن شفیع الا من بعد اذن حتی غیر پروردگار قدرت شفاعت غالب هم ندارند مامن شفیع نیسی سفارش کننده الا من بعد اذن مگر بعد از اذن او اگر او جاذب ده او بگئی بندگان شما بیائید شفاعت بکنید سفارش بکنید او وقت چرا ذالکم اللہ ربکم پس ببین حاصل و نتیجه دلیل اول را میگیریم ذالکم اللہ ربکم این الله رب شماست این ذاتی که دارای این قدرت است این ذاتی که دارای این تصرفات این کی الله همون اللهی که رب همه شما انسان هست نتیجه پسی میشه فعبدوه فقط او را عبادت کنید وقتی بغیر از او کارساز نیست غیر او را عبادت نکنید وقتی بغیر از او خالق نیست بغیر از او کسی را عبادت نکنید وقتی که بغیر از او مدبر نیست متصرف نیست پس غیر او را عبادت نکنید این نتیجه هر قدرتی که اختصاصی اون قدرت برای خدا ثابت میشه پس اختصاص عبادت هم برای خدا ثبت. چون عبادت بستگی به قدرت داره من کسی را عبادت میکنن که قدرت داشته باشه بتونه دست من بگیره بتونه مشکل من حل کنه پس ذالکم الله و ربکم فعبدو افلا تذکرون آیا شما پند نمیگیرید آیا شما موعز حاصل نمیکنید از این مسائل کسی که عقلش را کار نبرد نه حاصل نمی کند کسی که تعصب را جلو بندازد هیچ وقت حاصل نمی کند اليه مرجعكم جميعا این خوي فخروی است تنها امور این دنیا به دست الله نیست امور اون دنیا هم به دست او است فقط و فقط به او هست بازگشت شما همگی وعد الله حقا ان الاث سر بازگشت او است اللت نه که وعده الله حق است انه ان دلیل بعثت ببینید بعد از این چندین دلیل شما برای می خانید که این دلائل را شما قبلا خاندید بند اشاره می کنم به نوع استدلال به نوع استدلال اول اینکه همو ذاتی که اول توانست پیدا بکند ثانی و دوم به صورت می اول میتونه ببین باره اول مشکله برای دوم هنوز آسان یک کارخانه بلا تشبیه، یک کارخانه که صنعتی داره برای بار اول چیز در میخوان درست خیلی hey می کنن خیلی مشکله. هی بلاخره برنامه ریزی میکنن تدبیر میکنن خطایی نباشه اشتباهی نباشه صد بار اشتباه میکنن خراب از آب در میتر بلاخره درستش میکنن بار دوم دو دیگه کار روی غلطک افتاده با یک دکمه چی میشه درست میشه ما انسان ها اینجوریه لذا خدای تعالی بر اساس همون فکر ما بیان می فرماید که بار اول که خدای تعالی بدونی هیچی چی خلق کرد راحت هم خلق کرد خودتون هم قبول دارید خالق کیه؟ الله است پس بار دوم چرا برش مشکل باشه بار دوم بر اساس عقیده خودتون آسان تر از بار اول است چون اول بدون الگوست بار دوم با الگوست اِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثم يُعِيدُو همانا انزاد از ابتدا آفرید سپس دوباره اعاده فرماید. چرا اعاده فرماید؟ دلیل اعاده ل زی الذيین اسلام لا میں عقببتته یعنی عاقبتتی میشه نتیجه و ان انجاماب میشه کہ جظامی ده کسانانی را کے عملو و عملو سال حات بال قست ایمان اووردن و عمل صالح انجام دادم ب و به انصاف اما کسانی که نکردان چی والذین لهم شراب من حمیم انهای که کفر کردند انهای که حق انادن كفروا الحق انادن حقر انادن مخفی کردن لهم شراب من حمیم برای انها در آخرت نوشیدنی از از آب جوش و عذاب علیم هم بما کانو یکفرون برای آنان عذاب آب است عذاب آب دردناک است ما کانو به سبب اینکه کفر کردن بسبب به کفرشان شن از در دردناک است این دلیل اول بود ببین دلیل دوم خداوند از و جل از نظام شمسی استدلال می گیرد اون ذاتی که این نظام بزرگ را اداره می کند و این نظام بزرگ را را نظام شمسی واقعا نظام بزرگی هست ببین خورشید با این حجم ماه با این بزرگی خورشید یک میلیون و هزار برابر زمین ماه بقیه ستاره ها هر یکی بسیار بزرگ هست بعضی از زمین بزرگتر بعضی کوچکتر ولی اکثران از زمین بزرگتر هستن ستاره ها خب اینها هر یکی یک مدار دارند در اون مدار خودشون دارند حرکت می کنند و مداری که دارند این مداره از روزی که خداوند خلق کرده چندین هزار سال است الله بهتر میدن چند هزار سال گذشته و چند هزار سال دیگر الله بهتر میداند در پیش خواهیم داشت. در تمام این سالها نظام یکی هست. اصلا تغییر نکرده. هر روز در ساعت تعیین شده خورش طلو می کند در ساعت تعیین شده غروب می کند. هیچ تفاوتی با روز قبلش نیست از نظر دقیقه هست ولی با پارسالش نیست مثلا پارسال امروز سیزده فروردینه چه دقیقه تلو کرد چه دقیقه غروب میکند پارسال همین دقیقه بود امروز هم همون دقیقه خواهد بود ده سال دیگه هم همینطوره صد سال دیگه هم همینطوره و هزار سال پیش هم همینطور بوده چطور منظم هست و باز هر یکی از این ستاره ها بر اون مدار خودشون در دورانن در حال سیار بودن سیارن دیگه همه سیاره هستن سیر میکنن هیچی ایکی با هم دیگه تصادم ندارن با هم دیگه تصادف نمی در حالی که هر یکی از این ستاره ها چی هست چنان کشش و جذابیت شما ببینید زمین چقدر جذابیت داره که شما صد هزار تون را بالا زمین باشه زمین میکشه و خوردش میکنه لذا هر یکی از این ستاره ها به اندازه و حجمش همون اندازه جذابیت داره میکشه ولی نه هم دیگر را بعضی کوچیکم بعضی بزرگن چرا جذب نمیکنند چرا به هم دیگه برخورد نمیکنند چه با هم دیگه تصادف نمیکنند چرا در این نظم خللی ایجاد نمیاد چون که قدرتی پشت سر هست اون قدرت تا روزی که دستور میده بر همین منوال اینها در حال گردشن منافع خودشون را دارن از اینها حرارت حاصل میکنیم گرمی سردی از خورشید ما گرمی را رایسس میکنه ضمنی که هم نور میده هم گرمی از ماه هم نور میده هم سردی خفیف خنک که شب وقتی که بالاخره هوا گرم باشه ماه باعث میشه مقداری سرد بشه هم نوری مثل چراغ خواب به ما میده نور خفیفی که در اون سکون و در اون آرامش خللی ایجاد نشه ستاره ها هر یکی کار خودش را میکنند که ارز کردم هزاران خواص دارند ما یک درصد با اون خواصشون حتی آشنایی نداریم بعضی از خواص را کسانی که دنبال کردن ذکر کردن بیان کردن اکثراً را ما نمیفهمیم. فهمیم لذا همه اینها بر اساس اون که خداوند پیدا کرده دارن انجام وظیفه میکنن مشغول هستند در این انجام وظیفه از به خدمت شما هیچ خللی نیست پس خدایی که چنین نظام بسیار بزرگی را داره اداره می کند این کار به ظاهر خیلی کار سنگینیست پیدا کردن انسان و دوباره خلق کردن انسان برایش چی کاری دارد لذا این دلیل دوم است الله می فرماید هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا الله عزتي ہز که قرار داد خورشید را ضیاء قرار داد و ماہرا نور قرار داد قبلا ہم گفتیم کہ ضیاء اونات کے نورش ذاتی باشد نور اونات کے مستفاد من الغیر باشد نور ما از خورشید گرفته وقدره منازل و مقدر کرد الله برای آن منازل مقدر کرد منازل متعددی مختلفی که مال خورشید ارز کنم که دوازده تا برج هستند هر برجی هر سیروزی روزی سی یک روزی در یک برج قرار می گیرد و فصول هم از این درست می شوند و همچنین سی و و تا منزل دیگه هستند که بر اساس این شب و روز ایجاد می شوند و مال ماه 28 تا منزل هستند که بعد از 28 تا منزل دوباره تا طلوع بکند یک شب دیگه طول میکشد یا دو شب طول میکشد لزایا 29 روزی میشه یا 30 روزی میشه لذا فرماد. فرماید هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا الله عزتی اس کی قرار داد خورشید رضیہ و ماہرا نور قرار داد و قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وبر مقدر کم منازلی تا کہ به این صورت شما بدانید عدد سال ها و حساب را حساب بد است امامیات یک روز یک ما یک هفته یک سال همه چیز ما خلق الله ذلك ایلا بالحق. الله این را نیا فرید و خلق نکرد مگر حق خلق. برای اظهار حق حق. تاکشم شما خدا را بشناسید. آیا کسی دیگر بغیر از الله این نظام را؟ و این تصرف و این پیچیدگی را دارد قطعاً ندارد. بس چرا بسوی غیر شما متمایل ازدید که غیر را پرستش کنید. از غیر کمک بطلبید. يفصل ال آیات لقومی الله اللہ آیات را شن و واضح بیان می فرمائید برقومی که بدانند. کسانی که می و علم حاصل می کنند انها متوجه میشن. خب تتمیه همین دلیل از همین دوران خورشید و ماه چی پیدا میشه شب و روز لذا تتمیش اینه این فِي اختلاف لیلی و النهار همانا در اختلاف شب و روز دو تا مفهوم برای اختلاف قبلا بیان کردم یکی که یکی میره یکی میاد این خودشه که اختلافه مختلفه شب شبه گاهی روزه و یکی دیگه صورت اختلافی نه که گاہی روز بلند میشه شب کوتاه میشه گاهی شب بلند میشه روز کوتاه میشه نهار کوتاه میشه این اختلاف است این نه اختلاف لیل و النهار وما خلق الله في السماوات والارض وانتك يا الله افريده در اسمان و زمین یعنی در بقیه مخلوقات بمی ما عام هست، شما بروتی این زمین و آسمان بگرد، سبحان الله چه عجائبی هست، چه خلائقی هست، از کوها، از جنگلها، درختهای عجیب، حیوانات عجیب، پرندگان عجیب، زیبا، خوش صوت خوش آواز، و انواع آبها، انواع زمین، همه و همه انها که انسان، انسان تو اینها غرق میشه تو اینها گم میشه همه لا آیات لقوم یتقون همه و همه یک نشانی تو اینها نیست نشانات تاس دلائل هست اما برای اهل تقوا برای مستفیدین منل آیات ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها ببین با وجود این دلائل این دو تا دلیل بودند که از این هر دو دلیل دو چیز اثبات می‌شد هم قیامت اثبات میشه و هم چی اثبات میشه هم توحید اثبات میشه واگر خدا تعالی در این قدرت واحد است لا شریک له است و واگر خدا قادر است دوباره احیا می فرماید اما اینجا تخویف اخروی است و وعید است برای کسانی که با وجود این دلائل اعتقاد ندارند باور ندارن لذا خداوند برای انها وعید بیان ان لا اعتقاد ندارن به ملاقات ما لا یرجون البته باور دلیل اصلی چی دس دلیل اصلیش و رضو حیات دنیا هست گرچه این وصف دومیشون دو هست ولی زندگی دنیا را خوش کرده بهش دل بسته دنیا خاصیتش اینه که انسان وقتی که به او دل ببندد باورش نسبت به چیزهای دیگه ضعیف میشه بالخصوص دنیا عاجل هست نقد هست جلو چشمیت هست و آخرت عاجل هست اونجا ایمان بالغیب لازم هست از چشمت مخفی و پنهان هست لذا این دنیا چنان کشیشی داره که انسان را از آخرتی می غافل می کند لذا الله می فرماید اِنَّ لا لَا يَرْجُونَ ہ انا انهایی ک اعتقاد ندارن به ملاقات ما ورضضو حیات دنیا و راضی شدن به زندگی دنیا یعنی پسند دیدن زندگی دنیا را اتما نوبه سووم و به همین دنیا مطمئن شدن یعنی دلشون جمع شد دلشون خوش شد به همین زندگی دنیا والذینهم عن آیاتنا غافلون و سفچارمیشون و کسانی که از آیات ما غافلند، از همه نوع آیات چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی یا تنزیلی چه آیاتی که خدا نازل فرموده چه آیاتی که در این عالم کون خداوند در آیات گذشته اشاره کرد این آیات کسانی که از این آیات ما غافل هستند دارندگان این چهار صفت اولئک مأواهم النار این افراد جایگاهشان آتش است چرا بما یک سبون سبب عذاب به سبب کسبشان به سبب عمل کردشان اما این تخوف بود در مقابل تخوف تبشیر است همیشه برای اهل ایمان. ان الذين آمنوا و الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم همانا کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند يهديهم ربهم بإيمانهم. اونها را خداوند عزّ و جل به برکت ایمانشون می کند راهنمایی می به کجا راهنمایی میکنه به سوی بهشت بسوی, بسوی راستگاری یسددهم به سبب ایمانهم لاستقاء للاستقامه على سلوك طریق السديد المودي الى الصواب خدا راهنماییش میکنه به اون راهی را منجر به بهشت میرشه یهديهم ربهم با ایمانهم یعنی به ببرکت ایمان شان خداوند صبح نسیمی فرمد و راهنماییشون میکرند به سوی بهشت. اون که تجری من از الانهار از زیر درختها و پاهایشون یا قصرایشون جن جا آرا جاری است. فی جنات نیم در اون جناتی که سرآبها نعمت هستن. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیاتهم فیها سلام. دعواهم یعنی قول هم فيها گفته در اون بهش چی قاد بود؟ سبحانک اللهم هست البته این دو معنی دارد یا دو معنی ذکر کردن یکی اینکه دعواهم یعنی فریاد اونها فریاد اونها چی سبحانک اللهم هست یعنی مراد از دعواهم هم فریاد ذکر هست یا دعاء هست ذکر به معنی چیه یعنی به وسیله این ورد میکنن همیشه ذکر میکنه سبحانك اللهم سبحانك اللهم یعنی برای اونها ثابت شد که خدا پاک است رضامیه علایشاه یعنی کہ نہ دعواهم فیها دعایشان در بهش به وسیله سبحانك اللهم هست یعنی اول سبحانك اللهم میگم بعدا دعا میکنن به این صورت دعا میکنن دعواهم فيها سبحانك اللهم و تحیتهم فيها سلام خوشامدگوییشون به هم دیگه سلام گفتن است تحییشون سلام گفتن است و اخر دعواهم آخرین کلامشان آخران آخرین ذکرشان در هر مجلسی هر مجلسی که با هم نشستند خدا را یاد میکنن تعریف میکنن بلند میشن و آخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين گفتن است ببینید یک شبهی را خدمت شما عرض کنم که شاید برای بعضیها این شبه پیش بیاد که این دنیا جای ذکر است جای عبادت است جای سجده است جای تسبیح است جای تحمید است اما اون چیزی که ما شنیدیم بهش جای عیش است جای زندگی راحت است جای لذت بردن است ولی از اونجا معلوم میشه که اونجا هم باید ذکر کرد اونجا هم باید سبحان الله سبحان الله گفت الحمد الحمدللہ گفت نه خیر اون طور نیست ببین اینجا ذکر و عبادت تسبیح و تحمید گرچی بر انسان شاق هست مشکل هست چون انسان باید بالاخره عادت ندارد گرچه بعضی ها خیلی ذکر میکنن بعدن لذت و خوشیشون تو همون ذکر است راحتشون تو ذکر است اما عادتا و فطرتاً انسان بالاخره عادت نداره و ذکر مقداری برایش تکلیف ایجاد میکنه مشکله ولی خوب انسان انجام میده اونجا نه اونجا ذکر کردن تسبیح گفتن تعمید گفتن در واقع چی هست در واقع با لذت هاور است برای بهشتی و در واقع اونجا انسان خو و صفت ملائکه پیدا می کند بنده قبلا در باره ملائکه و فرشتگان گفتم فرشتگان که شب و روز تسبیح خدا بیان میکنند چون فرشتگان اصلا در فطرت اون در خوی اونها تسبیح است بدون تسبیح نمیتونن زنده بمانند مثال اعت مثل همین نفس کشیدنی که ما تو میکنیم کنیم شما بخواید یا نخواهید نفس میکشید خواب باشید هم نفس میکشید بیداری هم نفس میکشید نشستی هم نفس میکشید راه میری هم نفس می. این در اصلا خوی شما فطرت شماست بدون این نمیتونید زنده بمانید ذکر برای ملائکه هم چنین اونجا هم ذکر کردن و یاد کردن پروردگار اصلا در فطرت انسان ها قرار می گیره و جز از کنم لذات و جز شیرینی های زندگی انسان از ذکر حبیبش و دوستش انسان لطف می برد پس اونجد به عنوان یک تکلیف شرعی نیست به عنوان یک از کنم مسئله لذت بخش و راحت بخش برای اهل بهشت. و لو یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ عَجَلُهُمْ این زجر هست بر کفار و مشرکین و جواب یک شبه هست ببینید همیش دلائل بود و بعد از دلائل تخویف بود بعد از دلائل بیم بود انذار بود تخویف بود برای مشرکان همیشه این سوال بود که خوب ما که خودمون میخوایم عذاب بیاد چرا عذاب نمیاد چرا این همه تاخیر خداوند عزّ و جل اینجا جواب داده و بعضی حتی مطالبه کردند گفتن که خدا اگر این حقس بر ما عذاب بیار مثل نصر ابن حارس مثل بغیه اللهم این كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء هو اتنا بعذاب آلیم شاید من و تو هم تعجب بکنیم که آغا خودش عذاب میخواد خودش میگه سنگ ببارن چرا خدا سنگ بارانش نمی الله اللہ تعالی اینجا جواب میده که اگر همون طوری که شما برای خیر اجل دارید یه خیری برارست به شما برسه ای اسبابی اختیار میکنید که زودتر به شما برسید اگر شری که قرار است به شما برسه خدا بخواد اون شر را زود برساند دیگه هیچ کسی زنده نمی ماند همه اهل شر باید تمام بشه دنیا باید از اشرار پاک و صاف بشه اون وقت دنیا دار امتحان نخواهد بود دنیا دار جزا خواهد بود لذا اللہ عجل نداره ولو يعجل الله لِلنَّاسِ الشر اگر تعجیل بفرماید الله زود بفرماید برای مردم شر را استعجالهم بالخير مثله اجلهنها نسبت بخير لقضي اليهم اجلهم اجلهم پایان مییابد تمام میشه فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون لذا الله می می ما می گزاری منهار یعنی بلا عذاب بدون ایک چند روزی می گزاریم کرا فنظر هلا یرجون لقاءنها ما می کسانی را که ملاقات ما را اعتقاد ندارند دیدار ما را ندارند ندارن می گزاریم فی تغیانهم یعمهون در سر کسیشن سرگردان بمانند بزر چند روزی اسم خودشون را دوانند هر چی که دلشون انجام بدند و خدای تعالی می این انسان میگه که برای من عذاب بیا ولی این انسان یک درد سری را هم تحمل نمی کند کوچکترین مصیبتی براش میاد کوچکترین آفاتی میاد ای خدا ای خدای بار بار خدا را صدا میزنه افتاده هم خدا را صدا میزنه ایستاده هم خدا را صدا میزنه را رفتن هم خدا را صدا میزنه در هر حال خدا را صدا میزنه پس بی خدایی میگه که چرا عذاب نمیاد خب عذاب که بیاد این تحمل چرا ندارد و اذا مس الانسان الضر دعانا هرگاه برصد به انسان آسیب برسد zarar برسد, برسد دعانا فقط ما را صدا میزند لجنبهه او قاعدا او قائما لجنبه یعنی به پهلو افتاده یا نشسته یا ایستاده به هر صورت ما را صدا میزند از اینجا معلوم میشه که در دعا شرایط خاصی نیست ما بگیم حتما دعا نشسته باشد رو به قبله باشد نه گرچه آدابی دارد ولی شرط اجابت دعا هیچ شرطی نیست شما داری راه میری دعا میکننی داری نشسته دعا میکننی دست بلند میکننی دعا میکننی یا دست بلند نمیکننی دعا میکننی گرچه از آداب دست بلند کردن است در این تواو بیشترهخواابی دعا میکننی ضو داری ضو نداری بعد از نماز است قبل از نماز است شب روز هزار سفر در هر صورت معلوم میشه که دعا وقت خاصی ندارد. چندین حالت که خدا بیان فرموده معنیش همینه دعانا لجنبهی لجنبهی را اول آور چون انسان وقتی که مصیبتش براش پیش میاد معمولا افتاده بیشتر دعا میکنه در حالت چی؟ افتاده یا فوقش بهتر بشه نشسته بهتر بشه استاده لذا اللہ می فرماید ما را صدا می زند به هر صورت ما را سدا میزنه. فلما کشفنا عنه ضره وقتی که ما مصیبتش را ازو دور میکنیم مرک مر لم یدعونا الى ضر مصه این انسان می روید ما مارا فرا نخان دب آسیبی به او رسیده کذالک زینا للمصرفین ما کانو یعملون این علت است چرا انسان انغد ناسپاسه ناشاکره اللہ می فرمایت این گونه آراسته شده برای مصرفی مراد از مصرفی مشرکین هستند، آراسته شده برای مشرکین مکان یا عملون یعنی آن اعمال مشرکانهشان هر چی که اعمال میکنند این اعمال پیششان بسیار آراسته زیبا فک میکنه ایبادت میکنه و بعد از این خدا تعالی تخویف تقویف دنیایی می میفرماید برای انها یعنی انها وقتی ادامه بدند در دنیا برایشون عذاب است و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا همان ما هلاکت کردیم قرون گذشته با انواع عذاب قبل از شما لما ظلموا سبب هلاکت وقتی که آنها شرک و کفر کردند بزرگتری ظلم شرک و جاءتهم رسلهم بالبينات پیش آنان رسول پیامبران نشانه هم را با موجزات آمادند و ما کانو لیوب می نو تعصب ایمان نیاوردند. که دلیک القوم ذل این بیان سنت الله است. الله میفرماد عذاب کی آمد مخصوص اونها نبود. این گونه ما جزا می دیم به کیفر اعمال میرسانیم قوم مجرم را. ثم جعلناکم خلائفه فی الأرض من بعدهم لننظر کیف تعملون سپس شما انسان های موجود شما مخاطبین را ما قرار دادیم خلائف در زمین خلیفه در زمین بعد از اونها لننظر کیف تعملون تا ببینیم شما را شما چگونه عمل میکنید لذا خداونده عز و جل شما را نیاورده که اینجا بخورید و بخابید آورده ببینه شما چطور عمل میکنید لذا شما در عمل بکوشید والشما أزقافل أقرب نمانيد وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إئت بقرآن غير هذا أو بدل بمن يكي أزدلا إلى بطلان الشما همينك الشما مثل این قرآن نمیتونه بیارید وقتی که این قرآن تلاوت میشه، الله میفرماید وقتی بر آنان بر منکرین خاند میشه آیات بیینات و آیات روشن ابتدا آنها چه اعتراض میکنند؟ قال الذين لا يرجون لقاءنا أنا کسانی که اعتقادی به ملاقات ما ندارند یعنی قیامت را قبول قرآن غیر هذا او ب قرآنی غیر از این بیار یا یعنی این قرآن را جا جا کن قبلا خدمت شما عرض کردم که اونها با بعضی از مطالب قرآن مشکل داشتند بیشتر با مطالبی که خدایان اونها را رد می کند و خدایان اونها را هیچ نمی داند با اینا مشکل دارم می گفتم خدایان ما بد و بیراه نگویید ما با بقیه نماز و صدقات و بقیه کارها هیچ مشکلی ما نداریم ولی عنایت داشته باشید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چه جوابی میده الله تعالی به بی پیغمبرش میگه ای پیغمبر من تو به اونها اعلام بکن که من نمیتوانم تبدیلی بیاورم من نمیتونم تغییر بیارم از جانب خودم بارها این مطلب را خدمت شما ذکر کردم تأکید کردم که پیغمبر مختار نیست مختار اختیاری ندارد اختیار مال خداست پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در آیات الهی در احکامی که نازل میشه ولایت ندارد اختیار ندارد ولایت مطلق و اختیار تام مال الله است مال هیچ بندی ای نیست لذا الله می فرماید قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی برای من نیست یعنی در قدرت من نیست اینکه تبدیل بکنم از جانب خودم بس وظیفه شما مگه چیه ان تتبعوا الا ما يوحى من پیروی نمیکنم، مگر آنچه که وای میشه به سوی من یعنی من پیروی مهز هستم من تابع مهز هستم چرا اگر من دستکاری بکنم از سوی خودم اضافه کم بکنم اینی اخافو عصیت ربی عذاب یوم عظیم همانا من می ترسم. اگر نافرمانی کنم ربم را می از عذاب روزی بسیار بزرگ بسیار بزرگ من از اون عذاب میترسم. درسم قل لو شاء الله ما تلوته این جواب دوم و پاسخ دومشون ببینید به اونها بگو که اگر خدا می من ما تلوته علیکم من اینها را بر شما تلاوت نمی کردم و ادراکم به و شما را به این خبر نمیدادم. ولی خدا خواسته معلوم میشه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از جانب خودش هیچ چیزی را نمیخانت ببین ام المومنین عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید اگر پیغمبر اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کوچکترین دخلی داشت کوچکترین نقشی داشت حد اون آیاتی که در اون آیات خود پیغمبر مورد سرزنش قرار گرفته، اونها را نمیخاند. همون آیاتی که خدای تعالا خود رسول الله را مورد سرزنش قرار داده، اون آیات را هنوز پیغمبر میخاند. پس معلوم میشه که هیچ نقشی در اینکه چه آیاتی بخاند، چه آیاتی نخاند، ندارد. ان اتبع الا ما يوحى الي اني خاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم لذا من هر چیزی که میگم از جانب الله میگم از جانب خودم نمیگم مگر خدا میخواست نه میخندم نه به شما میگفتم فقط لبست فيكم عمرا من قبله ببینید این همون آیه هست که قبلا اشاره کردم به این که خداوند میفرما صاحبكم پیغمبر صاحب شماست همراه شماست اینجا سراحت تر می فرماید من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماندم در میان شما عمرم من قبلی یک عمر قبل از این یک عمر یعنی چهل سال من در میان شما بودم افلا تعقیل شما ذره اقل و خیرت ندارید که از همین زندگی گذشته من مرا بشناسید ببینید در باوجود که پیغمبر خدا صلی اللہ علیه و در میان همون مردم زندگی می یکی از بزرگترین دلائل صداقت و حقانیت رسول الله صلی الله علیه و سلم همینه که باوجود اون زندگی طولانی هم در نوجوانی بوده هم در توفولیت بوده هم در جوانی بوده هم در میان سالی بوده هیچ وقت هیچ انگوشت اتهامی هیچ انگشت اتهامی به سوی رسول الله بلند نشده هیچ وقت کسی نگفت که چرا این حرف را گفت چرا این کار را کرد چرا این حرکت بیجا را کرد در طول زندگی چهل ساله کوچکترین ایرادی وقتی که گرفته نشده بر ایشون ایشون الان چطور یک حومیت چینین کلام بزرگی را اليا ذو خودش درست میکنه به خداوند نسبت میده این خودش دلیل هست فقط لبست فيكم من عمره افلا تعقلون و بعد سرزنش میفرما فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات شما واقعا بزرگترین ظالم هستید که هم بر خدا افترا به نسبت شریک الی بی نسبتی نائب بی خدا بی پسر و دختر بسوي خدا و هم آیات الهی را که دال لبر توحید تکذیب می کنید از شما ظالم تر کسی نیست فمن اظلم ممن افترا علالله کذبا او کذب بآیات چه کسی ظالم تر از انسانی که افترا می گوید برالله دروغ را او کذب بآیات یا آیات الهی را تکذیب می کند انه لا يفلح المجرمون شان این کے اللہ تعالی رستگار نمی کنند مجرمان را و حال بعد از اینکه این دلائل هم دلائل نبوت گفته شد و هم دلائل توحید حال بیان خود توحید هست بسورت سمره و نتیجه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم آنان می آنها, آنها عبادت می کنند بجز الله. ملائکہ را انبیاء را را بندگان صالح را آن بندگان صالحی را آن انسان را که ما لا يضرهم ولا ينفعهم ن انهارا ضرر میرسانند در صورت ترک عبادت و نہ انهارا میرسانند در صورت عبادت کردن و یقولون شفعاؤنا عند الله میگوین انها سفارشیان ما هستند سفارش کنندگان ما شفاعت کنندگان ما نزدی اللہ استن. خدا می در جوابشون من چنین چیزی خبر ندارم قل اتنبعون الله بگو آیا شما به خدا خبر می دهید به علم فی السماوات چیزی که خود خدا نمی در آسمان ها و در زمین خود خدا اطلاع ندارد خود خدا خبر ندارد شما به خدا خبر می دهید سبحانه و تعالی عما اشرکون اون ذات پاکست و برترس از اون چیزی که با او شریک می گیرند و بعد الله تعالی می فرماید که اصلش در ابتدا این اختلاف نبود بعدا مردم اختلاف را ایجاد کردند دلایل ایجاد اختلاف را هم قبلا خاندیم و ما کانند الناس الا امتا واحدا فقط مردم نبودم مگر گروهی وا همه انبیاء بر مس... مسیر توحید بودن، مردم را بر مسیر توحید قرار دادند اما اختلاف کردند خب اختلاف کردند بعضی ها از روی تعصب از روی عناد و زد چرا بر اونها عذاب نمیاد الله میفرما ولولا كلمه سبقت من ربك اگر کلمه‌ای از جانب رب پیشی نگرفته بود کلمه‌ای که از جانب رب پیشی گرفته یعنی چه یعنی قبلا رب قضیه کرده که فلان وقت عذاب بده فلان وقت به اونها رسیدگی میشه اگر اون نبود لقدي بينهم فيما فيه يختلفون فیصله میشد بین آنها در آن چیزی که آنها اختلاف دارند همه کاری که رب انجام میده روی نظم است هر چیزی را برایش وقتی تاین کرده برایش زمانی تاین کرده و بعد زجر دیگر سرزنیش دیگر برای اناد کفار میگفتن خوب چرا اون ای که ما میخواهیم چرا نمیاد و یقولون لولا انزل عليه آیت من رب چرا آیه مطلوبه آیه مقترحه از جانب رب نمیاد فقل انما الغیب لله بگو غیب برای الله خدا بهتر میدوند که چرا نمیاد و خدا بهتر میدوند که اون آیه دوم که عذاب باشد کی میاد فانتظروا شما منتظر باشید اینی معكم من المنتظرین من هم همراه شما باچی هستم با انتظار کنندگان هستم و اذا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 إن رسولنا يكتبون ما تمكنون، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك، وجرينا بريح، وجرينا بهم بريح طيبة. وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعو الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لئن ان من هذه لنكونا من الشاكرين الله عز وجل آياتي وزشت بعد ذكر الدلائل لا بر اثبات توحید و بر وحدانیت توبیخ فرمودند عتاب فرمودند مشرکان را که و من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم معبودان را پرستش می کنند هستی های را شخصیت های را که نبی آنها ضرر میرسانند در صورت عبادت نکردن و نبی اونها نفع میرسانند در صورت عبادت کردن و میگوین این ها ما هستند بر این گفته اونها زجر بیان فرمود و حال هم اون ادامه دارد بر انسان انسان مشرک انسان کافر مراد هست که اللہ تعالی می فرماید وقتی که برای انها مشکلاتی میاد و بعد از مشکلات خداوند رحمتی می فراخی می آره و مشکلاتشون را برطرف میکنه به شرایط خوبی می رسند و شرایط خوبی پیدا می کنند درباره آیات ما چون این مشکل و بعد از مشکل رحمت آمدن نعمت آوردن این تمام دلائل قدرت پروردگار هستند اما اونها درباره آیات ما مکر دارند توطعه دارند هیلگری دارند توجیهاتی می که گویا این توجیهات معنیش اینه که هیچ چیزی از طرف خدا نبوده یل ایازو بالله و اذا اذقنا الانسان من رحمت من بعد ضرر وقتی که ما به انسان بچشانیم رحمتی را نعمتی را بعد از ضرر بعد از زرر و زیانی که مست هم به انها رسیده بود بعد از اون زیان بعد از اون ضرر بهش بدهیم اذا لهم مکرم فی آیاتنا در این هنگام برای آنان مکر و نیرنگ می بینی تو و توجیحات باطل می بینی در آیات ما قل الله اسرع مکر بی آنان بگو الله تعالی از نظر مکر و تدبیر اسرع هست از شما اسرع یعنی منکم خدا تعالی تدبیرهای بهتری سراغ دارد خدا دوباره میتونه شما را معاخذ کنه اما این را بدانید که هر چی شما میگویید هر توجیحی که میارید این رسولنا یکتبون اما تمکرون همانا فرشتگان ما و فرستادگان ما می نویسن آنچه که شما حیلگری میکنید توتیه میکنید توجیح میکنید مثلا ما در گذشته خواندیم آیه‌ای که هر وقتی که مشکل برطرف می‌شد مصیبت دور می‌شد اون‌ها می‌گفتند توجی می‌کردند قدمس صابا انا الذراء و السراء این خوشی‌ها و ناخوشی‌ها و مصیبت‌ها و نعمت‌ها تغییر احوال برای پدران ما هم بوده یعنی تنها برای ما نیست گویا یک چیز طبیعی است علی از بالله خدا هیچ نقشی نداره طبیعی یک روز خوشیم یک روز ناخوشیم الله تعالی می فرماید که وقتی که این جور گفتن قد مسنا امس ابا ان الذره والصرا فاخذناهم باغتۃ دیه خداوند ناگهان اونها را مؤخذ میکنه به عذاب گرفتارش میکنه اینجا هم خداوند می همه همه مکر شما را حیلگری شما فرشتگان ما مینویسن بعد از این الله تعالی دلیلی ذکر می کند اما از این دلیل می فهمیم که انسان تا انسانی که مقدار کمی وجدانش بیداره بعضی هستن همین وجدان اندکشو مرده اما اگر وجدان کمی بیدار هست تا زمانی که به اسباب متواصل میشه بیاد خدا نیست وقتی که اسباب را از دست میده بیاد پروردگار میفته خدا را رو میکنه و بقیه آلها و خدایان و معبودان را فراموش میکنه اللهم فرمات هو الذي يسيركم في البر والبحر الله عن ذاتي هز كشمارا سير ميذي شمارا ميبرت در خشكي و دریا حتى إذا كنتم في الفلك حتى وقت كشمارا هستي در كشتي وجرين بهم بريح طيبة وجاريمي كنت أن رابا بعد طيب زيبا موافق بعد موافقه کشتی هست بادبانی کشتی با باد خوب میره جلو میره به مقصد میره و فریحو بها وقتی که خوشحال میشند و غرور میگیره اونها را کشتی خوب راه میره ناگهان جاعتها هاریح عاصف می آید باد و طوفان شدیدی و جاعتهم الموج من کل مکان و از هر سمت سو موج می آید. موج کشتی را محاصره میکنند و ظنوا انهم احيط بهم این وقت یقین میکنن ظن به من یقین است یقین میکنن که نام مورد محاصر محاصره هستند احاطه شدند این وقت چکار میکنند دعو الله مخلصین له الدين دعا میکنند و سنام زن خدامت را اینجا دیگه با خدا شریک نمیگیره مخلصین له الدين خالص برای خدا دین را یعنی دوارا دعو الله مخلصین له دینه مخلصین لله الدعاء قبل الجماعه قاندید دعا را خالص برای خدا میکنن دیگه یا فلان یا فلان فراموش میشه فقط یا خدا میگویند و میگویند لئن ان جئتنا من هذه لنكونن من الشاکرین اگر ما را نجات دادی از این مهلکه از این مصیبت حتما حتما ما از بندگان شاکر تو خواهیم اما وقتی خدا نجاتشون میده فلما انجاهم اذاهم یبغون فی الارض بغير الحق وقتی که الله انہانا نجات میده میبینید دوباره در زمین خدا ظلم میکنند، کنند سرکشی و تمرد میکنن کنند بناحق ظلم و سرکشی چیه همون دوباره شرکشون هست ببینید این مثال را خدای تعالی مثال سوار شدن کشتی را شما چندی جا خاندید که اذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین این بی اسطلاع توحید وجدانی هست توحید وجدانی اینه که انسان تا زمانی که امیدی به اسباب داره خدا رو فراموش میکنه همون اسباب را فکر میکنه کوچکترین سببی که برایش هست هر کاری را نسبت به همون سبب میده اما زمانی فرامی رسد که کلا اسباب را از دست میده به اندازه یک برگی سبب نمیمونه کلا انسان مایوس میشه هیچ سببی برای نجات نیست هیچ سببی برای حل مشکل نیست وقتی که تمام اسباب را انسان از دست میده این وقت اگر وجدانی داشته باشد اون وجدانش بیدار میشه هر انسانی با توجه به عهدی به پیمانی که در اون وادی الست با خدا داشته در وجدانش در درونش توحید دست. لذا اون وقت انسان همه اسباب را فراموش میکنه و به رب اسباب پی میبره اونجا میگه خدایا فقط تو کمک کن دیگه این اون را که صدا میکرد همه فراموش میشن همه را انسان کنار میزنه دعو الله مخلصینا له الدين این هست توحید وجدانی که اوام وجدان زمان بیدار میشه که انسان از اسباب مایوس بشه این غیر الله را انسان ها یک نوع سبب برای خودش می دونن خواند میگفتن ها اول ایشفعون عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا و اما متاسفانه بعضی انسان ها عموم انسان ها این هست اما بعض انسان ها اینقدر شرک تمام وجودشون را و تمام اعماق درونشون را گرفته که همین وجدان کوچک را هم از دست دادن همین وجدانشون مرده همین در درونشون نیست یعنی اینقدر با غیر الله سروکار داشته با یا با اسباب که در بدتری شرایط یعص قرار میگیر بازم بیاد خدا نمیفته بازم این انسان اگر از انسانهای مادی هست فقط و فقط سبب وقتی سبب نماشه دکتر جواب بده نامید نا بکنه نمیدونم بقیه اسباب نجات نامید نا بشه دیگه دست بالا دست میگذاره اون خدا را صدا نمیزنه این همون هست که دیگه اون وجدان اندک هم مرده یا اونها اون گروه دیگر که غیر الله را صدا می زدن بعضی آهستن که در بدتری شرایط سخت هم می اون از بس که غیر الله را پرستش کرده از بس که با غیر الله سروکار داشته در شرایت سخت هم یا فلان و یا فلان می چون ما این خانیم که دعواللہ مخلصین له الدین شیری قبلا در مقدم برایتون خواندم خاندم که بسیاری هست امروز که این وجدانشون مرده به گرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یعنی در همون شرائط سخت اونها از خدا نمی یا معین الدین چشتی یا شیخ قادر جیلانی یا پیر پیران هم که سختی میاد یا امام رزا یا ابو الفضل، یا فلان یعنی در این زمان هم بعضی ها به به طرف خدا و به فکر ذهنشون به طرف خدا هم نمیره این همونه که کلم وجدان را از دست داده الله تعالی همین میفرماید که اینها میگوین دل این می انجه تا من هذه لنكون من الشاکرین خود ما ببینید همین وضعیت را داریم گرچه اهل ایمان الحمدلله متوسل به غیر الله نمی شوند ولی ببینید آیا اتفاق افتاده برای ما برای کسانی از ما که گاهی انسان از اسباب مایوس بشه خیلی اتفاق افتاده انسان هر چی که به اسباب فکر میکنه، مخیش کار نمیکنه به بمباس رسیده. در این هنگام، مثلا فردی هست برای نجاتش یک درصد امیدی وجود نداره. خب، در اون شرایط ارتباط با خدا چطور میشه؟ اتصال چطور میشه؟ انسان باچه استحذاری دعا میکنه، باچه حضور قلبی، باچه تذرعی نمازش، باچه خوشویی، باچه فروتنی. بعد آیا این حالت هیچ وقت در حالت عادی به ما دست میده نه؟ اون دعای، اون تذرعی اون توجه إلى اللهی که در اون حالت داشت انسان بعدا نداره انسان متاسفانه همینه یکی از ایزان از از خدا رحمتش کنه الان فوت کرده خیلی وقت پیش اینجا بود و یکی از نزدیکان و مقتدیان همین مسجد بود و انسانی بسیار مؤمن پایبند بود ایشون یک مدتی سروکارش به زندان افتاده بود البته گناهی نداشت اشتباهی تا جایی که حکم اعدامش هم صادر شده بود و قرار بود که حکم اعدامش بکنند حکم صادر شده بود اون زمان حتماً با خدای از و را و نیاز خوبی داشته تذرع خوبی داشته احساس می کرده آخرین روزهایش هست نماز خوب می خنده. اما بعدا خداوند بر او لطف کرد مشخص شد که این بیگناه هست آزاد شد بعدا اینجا به حضرت مولانا حضرت شیخ گفته بود شیخ تعریف می کرد می که این گفته که من اون نمازی که اونجا می اون حضور قلبی که اونجا داشتم اون یک سویی که اونجا داشتم الان که آمدم بیرون هر کاری میکنم همون نماز را بخونم نمیتونم حتی بیت الله رفتم و در اونجا گفتم از همه خلق ببرم همون نو حضور را همون رو طاعت را داشته باشم نشده میگه اون چرا نمیاد؟ یعنی واقعا انسان وقت تمام اسباب وقتی که قط میشه انسان با چنان حضوری می خانت حضور قلبی با چنان استحزاری که تعبداللہ که انک ترا انسان احساس میکنه غیر از من و خدا هیچ که نیست فقط ما دوتا هستیم من دارم اورا را صدا میزنم رضا اللہ تعالی همین مطلب رای اینجا بیان میفرماید بی که فلما انجاهم زمانی که خدا هنها نجات مینه اذا هم فی الارض بغیر الحق در این هنگام انها در زمین ظلم می کنند بغاوت می بنا بناحق ظلمشون ستمشون بغاوتشون هم شرکه لذا الله تعالی می فرماد یا ایوها الناس ای انسان ها اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ جو زی نیست که این ستم شما و بالش بر, بر خود شماست است حیات الْحَيَاتِ الدُّنْيَا حیات الْحَيَاتِ یعنی چند روزی از زندگی دنیا باہر می اگه اگر الان او مشکل تحل شده مگه تا خیلی کئی بناس بمانی بعدن پیش ما خواهی آمد فکر کردی که دوباره از ما فاصله می گیری پیش آمی ای جواب داری، ثم ایلینا مرجع کم، بما کنتم تاملون سپس بسوی ما بازگشت گشت شماس ماش بیش ما خبر میدیم آنچه که شما عمل میکردید اعمال شما را به شما خبر میدیم. لذا الله میفرماید که شما که الان ما را فراموش کردی الآن دوباره بغیر الله رجوع کردی آیا این فکر رشتا کردی که فردہ دوباره پیش مامی آئی چه داری چه جوابی داری دل بستی به دنیا فکر می در این دنیا خواہی مانت نه زندگی دنیا مثالش اینه انما مثل الحیات دنیا ام تزید من دنیاست. یعنی اگر زندگی دنیا مغرورت کرده نکنه چونکه مثال زندگی دنیا جوز این نیست انما نما مثال حیات دنیا نیست که مثال زندگی دنیا کمای این انزل من از مثل آبی هست که ما نازل میکنیم ان از آب آبرا از آسمان فقط لطبهی نبات آلب به سبب اون قاتی مش نباتات زمین با آب اون چی که نباتات و بذری در داخل زمین از سوی پروردگار است اون با آب چی میشه؟ قاتی میشه کدوم نباتات؟ مختلف بسیاری نباتات هستن انسان ها میخورن سبزیجات جات هستن خوراکیه برای انسان ها بسیاری برای حیوانات مما یکلو الناس والانعام از اون نباتاتی که هم مردم میخورن هم چارپایان حتی اذا اخذت الارض زخرفها حتی وقتی که زمین زیبایش را ورونقش را میگیرد، زمین میبینید که بحار کی میشه چمن سبزی درست میشه فرش سبزی ایجاد میشه وزینت وزینت این اتف تفسیری هست اتف تفسیری اخذت الارض زخرفها زمین زیبایش را میگیرد، یعنی زیبا میشه یعنی یعنی آراسته میشه تزیینات اصلش و ظن اهلھا انهم قادرون علیھا اهل زمین فکر میکنن که قادر هستن بر این محصولی که خدا بهشون داده یعنی باران میاد یا مثلا منظوری نه که بیابان همه الفاظ میروید الفاظی که انسان ها هم بعضی میخورن حیوانات میخورن یا این همون کاشتی که شما دارید دیمه که شما دارید گندم هست جو هست انواع حبوبات که هم مال, مال انسان هم مال حیوانه یک بخشش دانش جوش گندمش مال انسان بقیه کاه و پوستش مال حیوان است. وقتی که احساس میکنه این صاحب زمین که الان من میتونم درو بکنم الان میتونم که برای خودم برداشت بکنم استفاده بکنم یه ها امر خدا میاد امر خدا چه آفتی میاد مثلا برش آفتی میاد یه ها مثلا یک برفی میاد یک بندان میاد که تمام معصول را از بین میبره گهی شده نه یا گاهی چنان آفتی میاد چنان آفتی که همه را آفات میزند کر میگیرد یا آفات دیگری همه محصول میبینیم که خراب شد یا بادی میاد طوفانی میاد همه را از بین میبری یا ملخی میاد دیگر آفاتی دی از حشرات خدا میاره که همه از دست میره این انسان بیچاره تمه داشت که امروز فردا یک هفته دیگه یک ماه دیگه دیگه محصول را من حاصل میکنم من کیسه ها را کنم که گونی ها را پر گندم میکنم پر پر جو میکنم پر برنج میکنم آفت و احمد همه را از دست داد لذا الله می فرما بیبی بی، مثال دنیا همینه که گای شما به اون زرق و برقش دل میدید گاهی شما دل بستید دل خوش کردید یه ها میبینیم از طرف خدای تعالی چیزی آمد که تمام اراده شما تمام نیات شما به خاک تبدیل میشه لذا گاهی بعضی انسان ها هستن که برای زندگی خودشون خوب برنامه ریزی میکنند سالها زحمت میکشند بهترین باغ را آماده کنند بهترین ساختمان را درست میکنند بهترین ویلایی که برای رفاه و آسایششون باشه تهیه میکنند بهترین امکانات رفاهی را حالا میخوای استفاده بکنه یهو موت میاد موت میاد انسان دیگه نمی استفاده همه میمیانه برای دیگران هذا هو مثال الدنيا الله يقول وظن أهلها أنهم قادرون عليها أهل أنمي بندارا كالآن قادرا برآن الآن وقت دروه است وقت برداشت است أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أمر ما قزائما فسل إماميات شب يا فجعلناها حصيدا ما اون کشت را اون محصول را حسیدا دروش شده قد شده که لم تغنه بالامس گویا دیروز اینجا هیچی نبود لم تغنه غنا بالمکان یعنی در مکان قرار گرفت در مکان زیست و در مکان جای گرفت لم تغنه بالامس گویا دیروز در این مکان هیچی نبود لذا یه تمام اون آرزوها بیاس تبدیل میشی یا نمیشه این مثال دنیاست. الله اللہ میفرماید به دنیا دل نبند که زرق و برقش را میبینی زیبائیش را میبینی تلاش میکنی بهترش میکنی آمده یه استفادش میکنی یہ موت میاد یہ ہو حادثی میاد اللهم فرمای كذلك نفصل الایات للقوم يتفکرون این گونه روشن میکنیم مواضح میکنیم آیات را برای قومی که می اندیشند برای قومی که فکر میکنند پس چه باید کرد به دنیا دل نبند به دار البقا دل ببند برای اونجا همین آمادگی ره بکن همین ریزی را برنامه‌ریزی کاخ خوب باغ خوب زندگی خوب برای اونجا داشته باش بجای اینکه برای اینجا برای اونجا برا و خداوند هم به اونجا دعوتت میده والله يدعو الى دار السلام الله فرامی خانه دعوت میده بچمارا به دار السلام دار السلام نامی از نام از های بهشت است خدا شما دعوت میده به بهشت چون اونجا داری ہے اونجا هیچ مشکلی نیست، اونجا از هر خطری سالمی، از دشمن، از فنا، از زوال، از پس گرفتن نعمت، اینجا نعمتی داری، میلیارد داری، یک شب عزت گرفت میشه. از همه این خطراتی که اینجا در دنیا هست، از زوال و از دست دادن، از همه اینها. در سلامتی محفوظی پس برای اونجا و خدا هم فرامیخونه به اونجا شما را والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله راهنمایی میکنه هر کسی که خدا به خاطر هدایت او را به غالب ها نگاه میکنه و بعد انتخاب میکنه هر کسی که به خاطر الله هدایت او را به صراط مستقيم اونجا که شما با اخلاص عمل میکنید خدا به شما چی میده وصف دارو السلام را کن للذین احسنوا الحسن برای آنانی که اخلاص دارند احسان قبلا گفتم اخلاص یعنی هر کار برای خدا ببین مشرک در عملش اخلاص نیست او کارش را تا برای غیر الله میکنه مؤمن هر کارش را برای خدا میکنه مومن محسن است غیر مومن مشرک است پس کسانی که با اخلاص عبادت می کنند با اخلاص خدا را صدا می زنند با اخلاص خدا را صدا می زنند یعنی چی؟ یعنی فقط خدا را صدا می زنه غیر, غیر خدا را صدا نمی زنه کسانی که با اخلاص عبادت می کنند یعنی سجده را فقط برای خدا می کنند خدا را توری عبادت می که گویا خدا را می بینند و خدا اونها را می بینند لزا للذین احسنوا برای انهایی که با اخلاص عبادت می مخلص هستند در دنیا الحسنا الحسنا بهشت الحسنا تفسیر چیه؟ بهشت ببینید تفسیری که میکنم از صحابه منقول هست رضوان الله عليهم خیلی از صحابه هستند که به همین تفسیر کردن خدا به مخلصین بهشت میده و زیادتون اضافه بر بهشت اضافه بر سازمان یعنی اون چیزی که خدای تعالی به انها داده اضافه از اون بهشون میده اون زیادت چیه تفسیر زیادت بیشتر مفسرین از صحابه که نقل میکنن میگوین دیدار خداوند زیادتون چیه دیدار خداوند در روایتی هست که روز قیامت در بهشت فرشته از طرف خدای از بهشتی‌ها را خطاب میکنه ای بندگان خدا همه چیز دارید هیچ چیزی کم نیست چیزی باقی نمانده از نعمتها اهل بهشت که شماها باشید ان الله اونجا میگویند میگویید خدایا همه چیز به ما دادی همی نعمت دادی، همه لطف کردی، بهترین جا دادی، بهترین خوراکی دادی، بهترین لباس دادی، بهترین و فضروف دادی، بهترین باغ و بستان دادی، بهترین کاخ و قصر دادی، بهترین همسر و همدام زندگی دادی. دیگه هیچی باقی، همه فول، همه چیز کامله، هیچ نعمتی نعمت نمانده که ما اور از تو بخايم. می نه چرا یکی مانده؟ همه اهل بهشت منتظرن اون یک نعمت چیه اللہ عزوجل پرده و حجابی که از او را بر میدارد همه خدا را میبینم این نعمت دیدار خدا سبحان الله اونجا یک کیفیتی درست میشه یه حالتی درست میشه که اهل بهشت محب میشند چنان لذت چنان خوشی احساس میکنند از دیدار محبوب و دیدار معشوق که تمام بقیه نعمت را فراموش میکنند میگویند که همین یکی کافیه ولی گفته میشه نه این یکی گاهی که هفتگی هست لذا وازیاده تفسیرش به همینه که هم بهشت است و زیادتون یعنی اضافه بر سازمان، که بیشتر از که داد میشه، همینه و زیاده هست. ولا يرحقو جوهم قطر و نذل. چهره اونها را نمی پوشد، قطر یعنی سیاهی و نزلت چهره زیبا خان درخشان نورانی اولئک اصحاب الجنت هم فيها خالدون اینها بهشتی ها هستن همیشه درون اون بهشت میمانن و الذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها آنان که سیئات را کسب کردند کفر شرک را حاصل کردند جزاء سیئات بمثلها برای آنان جزاء سیئات بمثل آن است وترحقهم ذله وينجزاء السيئه سيئيك مقدر شده بمثل حمان سيئيشون جزا داده میشه بیشتر از اون نه و ما لهم من الله من عاصم نسبران از عذاب خدا عاصم کسی که انها را محافظت کنه نیست که انما اغشیت وجوه این بیان زلتش انها اصحالت زلت حدی هست که گویا تحت پوشش قرار داده چهرائه اونها را تکی از شب تار تکی از شب تاریک برچهرش ان افتاده چنان سیاه چنان زلیل اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون اینها اهل جهنم هستند اصحاب النار هستند همیشه در اون نار میوانند و یوما نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشركو بعد خدای تعالی تخویف دیگری اخروی بی بیان میفرماید که در روز قیامت همه مشرکین وقتی که در محضر خداوند اززا وجل حاضر می شوند ببینی ما یک مطلبی که همیشه می که خداوند خدایانشون ربا انها به جهنم می برد بسیاری انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم بسیاری سآل می کنند خب خیلی از کسانی که مشرکین عبادت شمی کردند صالحانند راضی نبودند اونها برای عبادتشون مشرکین عبادت میکنند. مثلا خیلی ها فرشتگان را عبادت میکردند خیلی ها انبیا را اولیا را عیمرا صالحین را شهدا را بسیاری هستند از بندگان خوب خدا شیخ عبدالقادر جیلانی را و عرض کنند که بقیه بزرگان رقیه خوبان نیکان شب میدونی مردم بیشتر به نیکان رجوع میارند خب آیا تکلیف این نیکان چی میشه آیا اینها هم شرایط نامطلوبی دارند چون مردم عبادتشون میکردن نه خیر اینها از عبادتشون چه خبر دارند اینجا بحث اینهاست بحث کدوم است؟ همون صالحانی که مردم اونها را عبادت می‌کردند این صالحان را خدا تعالی هم میاره به مشرکان میگه و یوم نحشرو جميعا ثم نقول للذین اشرکو بکسانی که شرک کردن بکسانی که غیر خدا را فریاد زدند از غیر خدا استمداد خواستن ما مکان مکانکم انتم و شرکاکم شما و شرکایتون شما معبودانتون بجای خودتون بمانید همه با خدایانی که عبادت می‌کردند با هم هستند اما انهایی که از عبادت خودشون خبر ندارند راضی نبودند انبیا اصفیا اولیا شهدا صالحا فزیلنا بینهم ما بین اونها چیکار میکنیم؟ جدایی ایجاد میکنیم، این صالحان از اونها فاصله گیرند که ما با این مشرکان کاری نداریم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایان تعبدون اون شرکاؤن صالحان می شما که ما را عبادت نمی کردید شما ما را صدام می زدید ونی ما خبر بودیم ما کنتم ایان تعبدون شما ما را عبادت نمی کردید و بعد می خدا هم گواه است فکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم خدا کافی است از, از نظر جواه بین ما و بین شما که این کننا عن عبادتکم لغافلین همانه ما از عبادت شما بی خبر بودیم شما اگر یا عیسی می گفتید شما اگر یا رسول الله می گفتید یا موسی می گفتید یا فلان می گفتید ما بی خبر بودیم این کننا عن عبادتیکم لغافیلی. الله می‌فرماد هنالک تبلو ثبل كل نفس ما اسرفت. اینجا می آید و حاصل می کند هر نفسی اون چیزی که در گذشته انجام داده از عمل اسلفت من العمل. یعنی اون عذابش اون کیفری عملش بهش میرسد و رد الى الله مولاهم الحق. و برگردانده میشه مند همه اینها پروردگار اللهی که مولای حقیقیشون هست و ضل عنهم ماکان و یفترون و از آنها ناپدید میگردد ضل عنهم یعنی عن نصرتهم عن مددهم از کمک کردن اونها اون, اون که افترا میگفتن دروغ میگفتن همه از بین میره لذا کسانی را که بغیر از خدا عبادت میکردند حتی صالحین اونها میان در اون میدان محشر بر علیشون گواهی میدن میگن شما ما را پرستش نمی کردید و ما خدا را گواه میگیریم که ما از عبادت شما بی خبر بودیم شما اگر من ایثار را صدا میزدید من مریم را فریاد میزدی فرشته میگه اگر من را صدا میکردی من که خبر ندارم و در آیه دیگه هست که خدا یا اینها ماغر عبادت نکردند ما کانو یابودون یعنی بل کانو یابودون الجن اینا جن را عبادت میکردن جن خودش را بجای ما جازده بود جن اینها را فریب میداد جن یعنی شیطان جن یعنی مامور ابلیس او اینها را فریب میداد ما ما هیچ خبر نداریم رضا الله تعالى مفرمايت بعد از این احوال مشرقين و این كدخال دست شوند هتشي آيدشو نميشه هتشي گيرشو نمياد بعد از این رب سبحانه وتعالى دليل توهيد اعترافي ذكب مي فرمايت دليل عقلي على سبيل الاعتراف من خسم رضا دل این توهيد اعترافی این هست که ببینید کسی را شما معبود بگیرید که خودتون گواهید که این تصرفات بزرگ را دارد رازق هست خالق هست مخرج الحی من المیت هست مخرج المیت من الحی هست مدبر تمام امور هست آیا از این خدایانی که شما پرستش میکنید کسی این تصرفات را داره قل حل من شرکای کمی یبدو الخلق کسی هست که از ابتدای چیز را خلق کرده باشد از آغاز پیدا کرده باشد آیا هست کسی که مدبر امور و گرداننده امور باشد نیست وقتی که نیست چرا دنبالشون کردید معبود باید معبوده مدبر متصرف خالق مالک دارای قدرت فوقلاده باشد کجا گم شدید شما در ظلالتشون ظلالتتون ای مشرکان لذا در این دلیل معلوم میشه که اون چی که انها عبادت میکنن پوچه بی ارزشه لذا این دلیل اعترافی هم هست یعنی مواردی ذکر میشه که مورد اعتراف آنها هست اللہ میفرمید قل من یرزقكم من السماء والارض بگوک چیزاتی شمار رسک میده از آسمان و زمین ام من یملک السمع والابصار یا چی کسی مالک سمع و بسر و من یخرج الحی من المیت چکسی کسی بیرون می کند کن از مرد نبات را از بزر یا انسان را از نطفه تمام سورت های تفسیرش را قبلا خاندیم همون سورت ها یا مسلمان را از کافر و یخ رجول مییت من الحی و بیرون میکنه مییت را از حی و میی یودا چه کسی هست که تمام امور را مدیریت میکند مدیریت این جهان به دست او هست کیه فشیاقولون الله کسی دیگر نیست صاحب زمان و امام زمان و کسی نیست الله قرآن قرآن میگه ف سیاقولون الله ان مشرکین هتمن حتماً حتماً هتمن خانگوفت الله است. پس وقتی که الله است، فقل افلاط التقوون بگو پس آیه شما نمی ترسید. یعنی آیه افلاط التقوون شرکه فی العبادة. آیه نمی ترسی. پرهیز نمی کنی. دوری نمی کنی از اینکه در عبادت با خدا دیگران رشیک میگیری. متساررف خداست. مدیر تمام جهان خداست چرا غیر خدا را در عبادت شریک خدا میگیری چرا غیر خدا را دعا میکنی چرا غیر خدا را سجده میکنی عبادت و تواف می میکنی افلات تقون ای شما عزیزی نمیپرهیزید فذالکوم الله ربکوم الحق این الله است این, این مدبر این متصرف این گرداننده امور این الله است الرب شماس رب حقیقی شماس فماذا بعد الحق الا الضلال چیه اس بعد حق مگر گمراهی نیست غیرت گمراهی غیر از راه حق دیگه همه چیه راه گمراهی هست فانا تصرفون کدام سمت شما برگردانده میشوید از توحید به انحراف کشیده میشوید از توحید کذالک حقت کلمت ربک علالذین فسقوا انهم لا یؤمنون اینجا صالی میشه که واقعا ان دلائل چرا قانه نمی کنه مشرکان را خودشون هم میدونند که مدبر تمام امور خداست خالق خداست رازق خداست یرزقو کم من السماع والارد خداست بعض هم واقعا چرا غیر الله را عبادت می الله می فرمه کذالک حقت کلمت ربک اینگون فیسلی رب ثابت شده یا کلام رب وعده رب ثابت شده على الذین فسقو بر کسانی که شرک می کنند تمرد دارند فسقو یعنی تمرد و سرکشی دارند خدا فیصله کرده که انهم لا یومنون که آنها ایمان نمی آرند فیسلی خدا ایمان نصیبشون نمیشه. دلیل دیگری که این متفرع بر دلیل گذشته است قبول دارید که راز خدا است خالق خدا است مدبر و متصرف خدا است قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیدو بگو آیا از شرکای شما از خدایان یعنی شما هست کسانی که از ابتدا خلق را خلق کرده باشد ثم من یعیدو اعاده بکند در قیامت قیامت را برپا بکند دوباره انسان ها را بدرست کند نیست دیگه اونام می کسی نیست قل الله یبدغ الخلق ثم يعيده بگو الله از ابتدا و از آغاز پیدا کرده سپس اعاده می کند فأنا تؤفکود بکدام سمت سوچما برگردانده می شوید از توید قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق بگو آیا از معبودان شما از شرکای شما کسانی هستند که راهنمایی کنند به حق حق همونطور خدا چطور تو این کلامش راهنمایی میکنه در کتابهای دیگر راهنمایی کردے به وسیله انبیا راهنمایی کردے آیا کسی دیگه هست نیست قل الله یهدی للحق بگو الله اس که راهنمایی میکنند به سوی حق به سوی حقیقت افا يهدي الى الحق أحق أن يتبع ام لا يهدي الا ان يهدا راهنمایی همه بندگان بس حق ايه ان ذات شما زوار ترس کی بشه این سی زاوار ترشک اتباع بشه یا اون کسی که خودش ہدایت نیست ام لا یهی دی, دی یعنی اون کسی که خودش ہدایت نیست مگر اینکه راهنمایی بشه خودش نیازمند راهنمایی هست آیا اونی که نیازمند راهنمایی هست او احق برای اتباع یا ذاتی که قدم به قدم شما را را راہنمائی همه دلائل را برای شما میارد فما لکم کیف تحکمون ای انسان ها ای مشرکان چی شده شما را چیگونه شما داوری میکنید چیگونه قضاوت میکنید چی قضاوت ظالمانی کسانی که هیچ قدرتی ندارند شما انها را با خالق قادر میارید مقایسه میکنید حمسات و برابر قرار می دهید. چقدر شما ظلم میکنید چقدر بر خودتون ستم میکنید خب حال برای من برای شما برای همه این سوال پیدا میشه که این خداناترسا این مشرک ها که اینها را غیر الله را پرستش میکنن بر اساس چه دلیلی هست الله میفرما و وما یتبعو اکثرهم الا ظنن اکثر اینها دنبال نمیکنند پیروی نمیکنند مگر پیرو چی هستند ظن ظن اینجا به تخیلات تخیلات باطله یعنی هیچ دلیلی بر شرک خودشون ندارند هیچ دلیلی بر اینکه غیر خدا را و بندگان خدا را پرستش میکنند ندارم مگر یک سری تخیلات و به قول مردم امروزی توهم زدند توهماتی است تخیلات است اینجا زن به معنی تخیلات باطل است والله میفرما ان الظن لا یغنی من الحق شیئا این تخیلات در حق و در اثبات حق ایچ نفعی نمی رساند. یعنی انسان را به خدا نمی رساند اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا خداوند خوب می داند که انها انجام می داند اعمال انها را دلائل من در آوردی را خدا می دوند. لذا انها بر اساس تخیل دارند عمل می کنند والدلائل مهكم را انبیاء كي انبیاء ذكر کردن با ان دلائل توجه ندارن وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله حال ببینید باحترین راه نمائره در ان قرآن الله تعالی می فرماید ان قرآن دليلي دلیل حسبر رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم به قرآن باید توجیه بشه اما اونها قرآن را قبول نداشتن در اینجا خدای تعالی اثبات خود قرآن را میفرماید. حقانیت خود قرآن را بیان میفرماید. فرماید ولی میفرماید می فرماید وما کانا هادا القرآن ان یفتر من دون الله این قرآن چنین چیزی نیست که افترا بشه دروغ بافت بشه از جانب غیر الله یعنی غیر خدا نمیتونه چینین کتابی بیاره ببینید اگر از جانب غیر الله بود یعنی از جانب باطل الله تعالی اینجا یک دلیل عقلیه که بسیار لطیف است و ظریف است بیان میفرماد اون اینه که اگر این از من دون الله بود از جانب غیر خدا بود با این زیبایی نبود اولا که این کتاب دلیل حقانیت قرآن صداقت قرآن اینه که این با کتب گزشته هم خانی دارد تورات انجیل زبور صحف موسی، صحف ابراهیم بقیه کتابایی که بر انبیاء آمد قرآن با همه اونها هم خانی دارد هر مطلبی که اونها بیان کردند هر دعوتی که اونها سوی او خواندند. قرآن به سمت سوی همون دعوت دعوت میده این خودشی که از دلائل است ببینید از جانب این دلیل را این قرآن را کسی عنوان میکنه پیامبری که قبلا با اون کتاب ها سرکار نداشته امی بوده امی بوده یعنی کتاب نخانده کتابی مطالعه نکرده تورات و انجیل را از بر نداشته از روح هم ندیده یک بار هم نخانده اما الان کتابی ردار میاره که این کتاب کلمه به کلمه با تمام معارف قرآن و با تمام معارف کتاب گذشته چی داره؟ هم خانی داره این خودش دلیل که این از جانب غیر الله نیست این دلیل اول ولیکن تصدیق الذی میفرمه این قرآن نیست ان یفتر من دون الله از جانب غیر الله باشد اما این چی هست تصدیق آن کتابی هست که بین یدای قبل ذین است اون کتاب های گذشته درباره توحید است یک تا پرستی است این قرآنم درباره توحید یک تا پرستی اون کتاب های گذشته قیامت را اثبات میکند قرانم قیامت را اثبات میکنه اون کتاب های گذشته درباره فرمانبری از احکام خداست این هم همونه یعنی هر چی که هستم مطالبشون خاملا با هم تطبیق داره با هم موافقت داره و بعد کمبودهایی که اون کتابهایی گزشته دارن قرآن اون کمبودها رو جمعراب می کنه ولیکن تف و تفصیل الكتاب ای فضیلت دوم هست یعنی کتبی که در گذشته هست قرآن اونها را روشن میکنه واضح میکنه بیشتر شرح می و سومی فضیلتش لا بفی هیچ شکی دری نیست. هر کسی شک داره تردید داره بیا نگاه بکنے بیاد بدون اینا تعصب قرآن را ببینه بررسی بکنے شکش برطرف میشه. خیلیها هستن که شک داشتن شک کشون برطرف شد لا بفی هیچ شکی نیست در اینکه چی. کی من رب العالمین هست جانب رب العالمین هست هست جانب رب العالمین هست و اگر شک داری ساختے و میگی ساخت و پرداخته محمد هست الا یاز بالله الله محمد از خود درست کرده خب محمد یک انسانی هست تو هم یک انسانی تو خودت را آغل تر میدونی با تر میدونی عالم تر میدونی تو بیا درست کن تو بیا مثل همین قرآن ی چیزی درست کن ام یقولون افتراح ام بیوان بل هست بلکه آنها میگوین او را از جانب خودش افتراک کرده از جانب خودش درست کرده خب فرض کنیم درست کرده قل تو بی سورت مثل بیاوری شما یک سوره مثلین صد و چارده نه یک سوره بیاری مثلین نه تنها شما هر چی که محین و معاون دارین. هر چی که خوب و بد داری همه را جمع کن و من استطعت من دون الله صدا بزنید فریاد بزنید بخانید هر کسی را که میتونی به غیر از الله ان کنتم صادقین کلام خدا نه از کلام خدا شما چیزی نگیرید گیرید به غیر از کلام خدا و به غیر از استمداد از خدا بیاورید این کنتم صادقین اگه شما راست میگی ببینید یک تهدیه است یک به مبارزه تلاشیدنی است که اینجا برای چند دومین بار تکرار میشه خدا خداوند میفرماید شما بیارید مثل قرآن البته اینجا اولین بار هست که خدا میفرماید اول خدا تعالی فرمود که بیارید مثل قرآن مثل قرآن یعنی با همین کیفیت با همین محتوا، با همین حجم با همین اندازه بعد فرمود که مثل قرآن نه ده تا سور قرآن فقط به عشر سور مثلی بعد از اونم تنظل فرمود گفت نه ده تا سور نه نمیتونید اینجا میفرمد فقط به سورت مثل یک سور مثل مثلی بیارید و شما نه تنها بلکه ودعو من استطعتم من دون الله هر کسی را که بجز خدا می خواهید صدا بزنید اگر راس بگید ببین این تح تحدي و این به مبارز تلبیدن دشمنان قرآن از پانزده قرن پیشه به نظر شما تا به امروز اینا هیچ تلاشی نکردند خیلی تلاش کردند خیلی خواستند مشرکان خواستند اهل کتاب خواستند خواستن این جواب قرآن را بدن که ما هم تونستیم تاریخ شاهد است خیلی ها را ما خبر داریم خیلی ها را خبر نداریم تا به امروز کسانی هستند که شب و روز دنبال قرآن افتادند ای تک تک سورعه قرآن را آیات قرآن را بررسی می کنند و ایراد می گیرند انتقاد می کنند ولی نتونستند مثل قرآن بیارند مثل قرآن از چه جهت قبلا این را خدمت شما گفتم تنها از جهت فساحت و بلاغت نه تنها از جهت زیبایی نه از چندین جهت کلامی بیارید که مو... مواعظش مثل مواعظ قرآن همطور تأثیر گزار و بلیغ باشه از یک جهت از جهت مواعظ وقتی نگاه میکنی سبحان الله کتاب اخلاق است هیچ معلم اخلاق به این زیبایی نمی نمیکند پر تاثیر از این جهت که از اخبار گذشتگان امم گذشتگان با چه زیبایی با چه دقتی بیان میکند کتابی بیارید که از گذشتگان به همین زیبایی بیان کند درباره آینده چه پیشگویی های می کند هر چی پیشگویی می کند یک به یک صدق می کند بیارید که مثل این درباره باره آینده هم همینطور دقیق باشد و همچین قرآن دارای اصولی هست دارای قوایدی هست دارای قوانینی هست که تمام مردم دنیا امروز که زندگی می کند بر اساس همین قواید همین قوانین که عدالت را در دنیا ایجاد می کند همین طور اصول زیبایی داشته باشد زوابت و قوانین زیبایی داشته باشد پس تنها فصاحت و بلاغت نیست اختلافو فی جهت اعجاز القرآن مع الاتفاق على کونهم معجزا همه اتفاق نظر در علما که معجز است اما جهت اعجازش چیه فقیل انه ببلاغته بل بازی گفتن به خاطر فصاحت و بلاغت وقیل قیل به عن المغیبات بعضی گفتن که از عالم غیب که خبر میده چطور دقیق خبر میده و قیل با اسلوب بعضی گفتهم این اسلوب راویشی که قرآن داره وقیل قیل بسرف الله تعالی العقول من المعارزه و بعضی گفتن خدای تعالی اینجا اقول رب سوی از معارضه با قرآن خود به خود منصرف میکنه یعنی انسان به این نتیجه میرسه که این کلام کلام معقولی هست دلایلش همه عقلی هستند نمیشه ایراد گرفت نمیشه اشکال گرفت لذا الله دلائلی که بیان کرده عقلی نقلی پیشگویی هایی که بیان فرموده موائز و تذکیراتی که بیان فرموده اخبار گزشتگان که بیان فرموده فصاحت بلاغت زیبایی کلام هیچ کلامی مثل این نمیتونه باشه شما یک سوره مثل این بیارید از کردم خیلی ها تلاش کردند چند نمونه که ما در تاریخ داریم بعضی هاشون را خدمت شما عرض می‌کنم. اولین کسی که این تحدی را و این به مبارزه تلبی را پذیرفت گفت من مثل قرآن میارم یکی از عرب ها که بعدن ایمان آورد حضرت لبید ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه لبید ابن ربیعه یک نظمی نوشت یک شعری نیست، یک کسی بود که بسیار زیبام می نوشت کسی بود که حافظه خوبی داشت خیلی فت... ارسونک دارای فتانت بود دارای زرنگی و زرافت بود فسیح بود بلیغ بود شعر خوب می سرود همگان را تحت تاثیر قرار میداد این یک نظمی نوشت یک کلام زیبایی نوشت و به منظور مبارزه با قرآن برد بر خانه کعبه آویزان کرد اینه مثل قرآن من نوشتم نظم زیبایی بود همه می آمدن تحسین میکردن یکی از اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سوره ای از قرآن نوشت یک سوره کوچک از قرآن نوشت برد در کنار شعر این آویزان کرد وقتی که مقایسه می سبحان الله این محتوى را نگاه کن اون محتوى را نگاه کن در مقابل قرآن ایچی نیست درسته که آدم زرنگ و باهوشی بود آدم باسواد و دارای فساحت و بلاغت بود اما اون نظمش اون متنش در مقابل قرآن هیچ چی نبود هر کی می آمد متوجه می شد خودش آمد آمد وقتی که آیات قرآن مجید را محتوى را زیبایی را اعجاز را وقتی که مشاهده کرد همونجا اقرار کرد نه این کلام از کلام من قوی تره کلام من درسته این نیست همون جا ایمان آورد پذیرفت که من نتونستم و بالاخره خودشی که از معتقدان قرآنش گفنا، این کلام کلام بشر نیست، کلام انسان نیست. این صحابی بزرگوار بعد از اینکه آمد به میدان مبارزه شکست را پذیرفت و خودش مسلمان شد، لبید ابن ربي عرضی الله تعالالهم. فرد دیگه هست بناب ابن المقفع که در سال 727 میلادی زندگی می کرد در همون اوایل تقریبا در دوران طبعی تابعین یا دوران بعدی هستین ها این هم یک عدیب معروف بود و فرد زهین و تیزوش و صاحب زوق و صاحب تبعی کلام و خیلی نویسنده چیر دستی بود اما از غیر مسلمانان بود مردم معارضان قرآن دشمنان قرآن کنار او جمع شدن گفتن شما بیا مثل قرآن بنویس این همه مسلمانان میگه شما نمیتونی نمیتونید، تو بیا بنویس گفت که من این کار رو میکنم آماده شد. من این کار رامی کنم ولی زمان میبره به شرط که شما هزینه زندگی منو بدید خرج زن و بچه من رمان من دیگه مشغول به این کار بشم من با شما به من هزینه بدید تمام مردم و دشمنان اهل کتاب بودند اینا قبول کردند گفتن که ما هزینه را میدیم خزینه یک سال را گفت برای یک سال زن و بچه من شما هزینه کنی یه جایی یک سالونی، یک اتاق را انتخاب کرد که خودش شب و روز اونجا بشینه و بنویسه اوراقی، دواتی، رنگی، مرکبی با خودش برد و شروع به کار کرد خلاصه شش ماهش گذشت بعد از شش ماه کسانی که او را حمایت می کردند و به قول مردم اسپانسرش بودند می خواستن برند از پیشرفت کار ببینند که به کجا رسیده وقتی که رفتند دیدند که یک کاغذی هست به دستش این کاغذ مچاله هست و همون ترداره فکر میکنه و دیدن که یک انباری از کاغذ اینجا هست همه اینها را نوشته و مچاله کرده انداخته نشده بعد گفتن چی گفت شش ماه هست هر کاری میکنم نمیتونم و شکست را پذیرو گفت نمیشه مثل این نمیشه بعد از اون منصرف شد ادامه نداد لذا خیلی ها بودن این نیست که تلاش نکردن خیلی ها میخواستن بگن که شما مسلمانان که ادیامی کرید این کلام این سخن بعضی های چیزهای درست کردند اما یه چیزای که خنده آور نمیثل قرآن معتوا داشته باشه نمیثل قرآن زیبایی داشته باشه معروفی میگم مسیلم امنی کذاب درست کرد برای فیل تعریف فیل را الفیل فیل و ما ادراک فیل له زنبون و بیل و خورتون طویل این گفت همون پیروان و دوستداران خودش گفتند این نگو این میخندند این چیه که شما فیل را تعریف کردی در مقابل مطالبی که قرآن داره میگه لذا الله تعالی همینو و بیان می که قل فاعتو بصورت مثل یک سوره مثل این بیارید ودعو من استطعتم من دون الله هر کسی ربیتونی بغیر از اللہ بیاریدن کنتم صادقین اگر شما صادق هستین الله می‌فرماید انها در واقع قرآن را تکذیب کردن نه از روی علم گاهی انسان یک چیزی را قبول نمی کنه علمش را داره دانشش را داره خودش را داره آغا من این قبول نمی کنم من دلیل دارم اما اینها بدون علم بدون اینکه اصلا قرآن را درد بکنند بدون اینکه قرآن را بفهمند بدون اینکه قرآن را مطالعه کرده باشن تعصبشون نمیذاره قرآن را مطالعه بکنه ولی متکزم میکنه میگه نه من قبول ندارم این را از خود درست کرده شما خوندید نه خودش رو نخوندم خیلی هستم بعضی مطالب را به شدت رد میکنند میگه این مقاله باطله این غلطه به چه دلیل شما خودت خاندی میگه نه هم نخاندی از کجا میدونی لذا اینا همین طور هستند اللہ می فرماید بل كذبوا بما لم نیحیطو بعلمه بلکی انها تکذیب کردن آن چیزی را یعنی قرآنی را که لم نیحیطو بعلمه علم آن را احاته هنوز قرآن را خودشون بررسی نکردن یعنی ان کلامهم ان و انکارهم للقرآن ليس مبتنیاً على التحقیق والتفکر قرآن را که انکار بیکنند بر اساس تحقیق و تفکر نیست بر اساس دلیل نیست بر اساس تعصوبه بدونی که قرآن را مطالعه کرده باشن میگن قبولش نداریم و مالم یحیط بی علمی علمه علم رأیات نکردند و لما یأتهم تأویلو و هنوز پیش اینها نیامده تعویل تعویل یعنی انجام انکار ببین تکزیب قرآن یعنی کفر این کفری که میکنند هنوز انجامش بیر هنوز اون کتکی که باید بخورند اون از کنم شلاغ عذابی که سرشون بخوره هنوز بسرشون سرشون آمده با این جرات میگن نه من قبولش ندارم وقتی عذاب خدا میاد اون وقت بگه من قبول ندارم و لما یعتیم تأویلو تأویلش یعنی مصداق و عید عذاب برایشون نیامده هنوز خدا میگه من مکذبین را چنان میکنم به عذاب گرفتار میکنم هنوز گرفتار نشدن که اینقدر جریح هست اینقدر به خود جرات میده که کلام خدا را تکذیب بکند الله میفرماید پیشینیان تکذیب کردن کتاب های آسمانی را بروند انجام و عاقبت اونها را مطالعه بکنند اونا به کجا رسیدن كذلك كذب الذين من قبلهم انگونه تکذیب کردن کسانی که قبل آنها بودن فانظر کیف کان عاقبت الظالمين ببین چگونه هست عاقبت و انجام ظالمان انهای که انجام انهای که ظلم کردند اونهای که تکذیب کردند اونهای که انبیاء را قبول نکردند انجامش چی شد, شد, شد به چه عذابه ابدی و به چه بلای همشک گرفتار شدن خب حالا سوال انجاست که چرا خدا فورا نذااب نمیده این اینکه خدا مهلت میده عذابش تاخیر حکمتی هست یکی از حکمتار اینجا خدا بیان فرموده و منهم من یؤ من به، نوبه و من هم مله به. بعضی از همی مشرکان هستند که در آینده ایمان می آورند به این قرآن و بعضی هستند که در آینده ایمان نمی آورند بعضی در آینده ایمان می آورند الان اگر عذابیت همه را می کشه همه را از بین می بره مثلا 50 درصد ایمان میاره اون 50 درصد که قرار مومن بشه عذاب فوری اونها را هم از بین می بره مثلا آیات مکی هستند ابو جهل ایمان نیاورد. ولی دراینده فرزندش اکرم ابن ابو جهل ایمان آورد. که میگفت من نگوی دکرم ابن بی جهل بگو اکرم ابن اسلام. ابو جهل ایمان نیاورد، اطبه ایمان نیاورد، شیبه ایمان نیاورد. اما ابو سفیان ایمان آورد. خب بعضی ها هستن دراینده ایمان میارن، بازی ایمان نمیارن. و ربک اعلم بالمفسرین. رب تو بهتر میدانم مفسدین تو پس به این دلیل فورا نزاب نمیاد. خدا مهلت میده. و این فقل لی عملی ولکم عملکم. انجام زاجر سرزنشه. الله تعالا میفرماید که اگر تکذیب میکنم بعد از این همه دلایل بیانن بگو اشکالی ندارد. من بکار خودم مشغول میشم شما بکار خودتون منتظر میمانی. و بعد خداوند پیغمبر خودش را تسلی میده میگه ای حبیب من ای رسول من شما این ناشنوایان را نمیتونی بشنوانی اینها گویا قوت شنیدن را از دست دادند شما این نابینایان را نمیتونی راه نشون بدی اینها قوت باصره و دید را از دست دادند یعنی اینها حواس دارن ولی حواسشون کار نمیکنه اینها میشنونن ولی نمیشنونن میبینن ولی نمیبینند چون خداوند مهر محرومیت و مهر جباریت بر گوش و چشم و قلب اینها زده لذا الله می فرماید و این کذبوک اگر تو را تکذیب کردن فقلی عملی ولكم عملكم ببرئ من عمل من وبرئ شما عمل شما انتم بريئون مما عمل شما بيزارد از آنچه که من عمل میکنم و انا برئ من ما تعملون من بیزارم از اعمال شما از شرك شما از کفر شما ومنهم من يستمعون اليك بعض از اینها که استمامی کنن گوش ظاهر هم بظاہر تو، اما انها قابل هدایت نیستن فانت تسمعو سمم آیتو میتوانی بشنوانی ناشنوارا ولو كانوا لا يعقلون هم ناشنوا باشد هم عقل هم داشته باشه میتونی بفهمانی ببین خیلی از ناشنوانان یعنی هستن که شما وقتی باشون حرف میزنی لبخانی میکنن میدونه شما چی میگید اما هم ناشنواس هم عقل نداره این میفهمه چیزی أفأنت تسمع السم ولو كانوا لا يعقلون آیا شما ميتواني بشنواني ناشنوارا وگرچ عقل ندارد ومنهم من ينظر إليك بعض يزنها هستن مبيند نگاه يكون بسويتو أفأنت تهدي العمي آیا ميتواني رهن ما يكوني كورا نابينا ولو كانوا لا يبصرون گرچه انها بسيرت و بسارت هم بسارت نداره چشم نداره هم بصیرت یعنی بصیرت فهم با قلب را میگن یعنی درک نداره میتونی را راهنماییش کنی نه لذا حال این سوالی هست که این ظلم نیست خدا از اینها قدرت فهم را گرفته خدا تعالی از اینها از کنم که ابزار و اسباب هدایت را گرفته انسان باجی هدایت میشه با همین چشم سالم، گوش سالم، قلب سالم که درک و فهم داشته باشه. اینها را خدا ازشون گرفته چطوری نه هدایت بشن؟ الله میفرمای خدا ظلم نکرده. اینا خودشون ظلم کردند. خدا زمانی از اینها گرفت که اینها از خود عناد نشون دادند. تعصب نشان دادند. جدال بالباطل کردند. آمدند مبارزه کردند با حق و با اهل حق. لذا بعد از اینکه انها جدال بالباطل کردند شما درجات ظلالت را اولا خواندید بعدا خدا مهر جباریت را بر آنان زد ان الله لا یظلم الناس شیئا همانا الله ظلم نمی کند بر مردم ذره ولاکن الناس انفسهم یظلمون اما مردم هستند که بر خودشون ظلم میکنند خدا حواسی که به اونها داده چشم گوش و قلبی که به اونها داده از این استفاده نمیکنند. فقط از اناد و تعصب خودشون استفاده می کنند. لذا هر الله تعالی می فرماید تخویف اخروی هست اینهایی که انکار می کنند اینهایی که کفر میکنند، روزی که خدا اینها را بر می انگیزد. زنده می کند از قبرها بلندشون می کند. چه وزیعتی دارند و یوم یحشرهم این تخویف است روزی که الله انهارا حشر می کند که علم یلبثو الا ساعتم من النهار گویا در دنیا نماندن مگر یک ساعتی از روز یک لحظه یک ساعتی اونجا زندگی کردند يتعارفون بينهم هم ديگر را میشناسن یعنی همون یک با هم بودن الا هم دیگر را میشناسند یعنی این زندگی 50 ساله 60 ساله 80 ساله 90 ساله دنیا کلا پاک میشه گویی یک ساعتی در دنیا است بس اونجا وحشت است قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الله می فرماید واقع در خساره و زیان واقع شد در خساره ابدی افتاد اون کسانی که تکذیب کردند ملاقات خدا را یعنی قیامت را ببین منشه تمام این کفر و ضدشون یعنی که اونها قیامت را قبول نداشتند اگر قیامت را قبول داشتند قطعا برای قیامت آمادگی می کردند کردن، و ما کانو محتدی اینها در دنیا هدایت یافتی نبودند خب پس خدا در قیامت عذابشون میده. آیه در دنیا هم گرفتاری برای هست یا فقط منتظر قیامت باشیم الله تعالی به پیغمبرش میگه که در دنیا هم عذاب خداست اما چه ما در حیات شما با وجود شما در زندگی شما اونها رو معاخذی میکنیم چه بعد از وفات شما چنانچه خدای تعالی بسیاری از دشمنان رسول الله را در حیات رسول الله از بین برد. ابو جالهاو ابو و اثباو شیباو همه اینها در زندگی رسول الله کشته شدند. اهل مکه در زندگی رسول الله شکست خوردند. مکه سقوط کرد، فات شد، حنین فات شد، طائف فات شد. بسیاری دیگر از دشمنان رسول الله مثل اهل یمامه که مسلمه کذاب بود ادعای پیغمبری کرد رسول الله انوز حیات داشت که ادعای پیغمبری کرد و مردم اطرافی اجام شدند اینها را خدای تعالی مواخذه کرد بعد از رسول الله توسط صدیقی این امت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی بسوی مسلمه لشکر کشی کرد جنگ یامام خیلی معروف است خیلی صحاب شهید شد هزاران شهید شدند اما اون سپاه بزرگ مسلمه شکست خورد آخر مسلمه باخاری و ذلت به دست مجاهدان اسلام به دست صحابه رسول الله شاگردان رسول الله کشته شد اسپای در آمد بسیاری دیگر از ابر قدرت ها انہائی که نام رسول اللہ را کسرائی ایران که نام رسول اللہ را پارے کرد انہائی که بر برائی رسول اللہ وبر علی رسول اللہ تعروز کردن لشکرکشی کردن که رسول اللہ تبوک هم رفت در سال نوم اجری حرق روم روح منہا اللہ تعالی در زمانے۔ خلیفه دوم راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نهو مار کرد. لذا الله می فرماید چه دشمنان تو را ما در زمان تو نابود میکنیم یا چه بعد از تو نابود میکنیم نابودش میکنیم. اللہ تعالی یہ چطور ہا رچ طور با چه زیبایی محقق فرمود اللہ می فرماید و ان ما نریانک بعض الذی نعدہم اگر ما به نشان بدهیم آن بعض آن چیزی که ما وعده دادیم اون را وعده می‌دهیم او نتوفینک بعض آن چیزی یعنی بعض از عذاب او نتوفینک یا جان شما را بگیریم فالینا مرجعہم به هر حال بازگشت آنها ماست اعزاب اصلی انجاست که بسوی ما انها برگردن ثم الله شهیدون على ما يفعلون این ثمت عقیب ذکریه است یعنی بعد از این این رب بشنو که الله گواه است بران چیزی که اونها انجام میدهند و لیکل امت الرسول این تخویف دنیاوی هست هر گروهی، هر جماعتی در دنیا رسولی داشته. فايدا جا آ رسولهم، هرگاه رسولی آنها می آید قضی بینهم بالقصت، بحق و به عدل فیصل میشه، و هم نه یظلم. آنها ظلم نمیشه بر آن هیچ ستمی نمیشه. اما، اما اونها می که مشرکان اجلا داشتند. میگفتن خب اینکه خدا ما را ازاب میده که از اون جایی که باور نداشتن کی برای عذاب عجل میکنه باور نداشتن میگفتن زود تر بیاد و یقولون متا هاد الوعد میگویند این وعد, وعد این اینو میگویند به قصد تقزیم میگویند و یقولون متا هاد الوعد این کنتم صادقین این وعد که هست اگر شما راست میگوید اینجا الله تعالی جواب بیان می‌فرماید اما اینجا جواب به شکل عتاب است سرزنش است ای پیامبر بگو که عذاب را من که نمیارم که من بدونم عذاب که است ببین اینجا از این نوع انسان متوجه میشه فرق خدا را با فرق پیغمبر خدا پیغمبر خدا بندی از بندگان خدا است اما مقربه اما والاست اما خاص و اما خدا کی نیست که عذاب بده پس این داستان هایی که بعضی درست کردن تو کتاب هایشون نوشتن که فلان ولی میتونه دنیا را به هم بریزه این غلطه حتی بالاترین انسان وبالاترين موجود هستی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم باشه این قدرت را قدرت خدایی را ندارد ببین اینجا خدای تعالی چی میگه پیغمبر شکست نفسی نمی کنه خدا بهش میگه تو بگو قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا بگو من مالک نیستم برای نفس خودم برای وجود خودم مالک زرر نیستم مالک نف نیستم الا ما شاء الله مگر آنچه که خدا بخواهد یعنی آنچه که خدا بخواد, یعنی بخواد همون میشه من مالک نیستم وقتی که پیغمبر مالک نف و زرر خودش نیست پیغمبر می چطور میتونه تونه مالک نفع و ضرر و تو باشه که ما بیای مشکل من راس پیغمبر بخوایم مالک نفع و ضرر ما الله است لکل امت اجل برای هر گروهی مدتی است پس عذاب میاد اونا میگفتم و یقولون متعذل وعد هر گروهی هر جماعتی یک مدتی دار اون مدتش که بیاد میاد اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون وقتی که اجلشون میاد مدتشون میاد فرا میرسد تأخیر نمی کنند یک ساعت یعنی یک لحظه. ولا يستقدمون از اون ساعت و زمانش جلوتر هم نمیشه اللہ تعالی می فرماید شما زمان عذاب را نپرسید شما به این فکر بکنید که عذاب که بیاد چیکار میکنی، چطور خودت را نجات میدی؟ برای پیشگیری از عذاب جلوگیری از عذاب چه برنامهی داری قل ارائیتم بگو خبر بدهید ان اتاکم عذابه اگر عذاب الله بیاید پیش شما بیاتن او نهارا بوقت شب بیاید و بوقت روز بیاید ما ذا یستعجل منه المجرمون چه چی اون چیزی که عجل بکنن از مجرمان در اون تعجیل در اون انفجارات عذاب چی کار میکنی چه برنامه‌ای داری از یعنی بعد از آن وقتی که اذابیات ایمان میاری، اسومه اذا ما واقع آمن به آیا بعد از اینکه عذاب واقع بشه ایمان میارید به خدا؟ اون وقت ایمان میارید؟ اون وقت ایمان بیاری، بشما چی گفته میشه؟ آل آن، آل آن یعنی الان؟ ایه الان وقتشه؟ الان وقت ایمان است و قد کنتم به تستعجلون در حالی که شما برای این عذاب اجلمی کردی عذاب را خودت خواستی الان می ایمان بیاری نه، ایمانت پذیرفته نمیشه مثل فرعون وقتی که عذاب آمد غرق آمد آمنتو بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل بنو اسرائیل به هر چی ایمان آورده ما نمی زد تو جبرائیل امین گفت الان وقتیشه. لذا این اینم وقتی ازابیار ایمان بیاره فرشته میگه الان وقتشه؟ در که شما برای عذاب اجلا داشتید ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد سپس گفته میشه کسانی که ظلم کردند یعنی مشرکان ذوقوا عذاب الخلد بچشید عذاب دائمی را عذاب همیشگی را هل تجزون الا بما کنتم تکسبون؟ شما جزا و پاداش داده نمیشهید، مگه اون چیزی که خودتون کسب کردید، کسب خودتون هست، عمل کرده خودتون هست. و بعد وقتی که این مطالب گفته میشد، مشرکان بازم تعجب میکردند، و به اونا که از تو طلب خبر میکردند، میکنند، یعنی از تو استفسار میکنند، جویا میشوند، و میگه حق؟ هو واقعا حق واقعا از هست یا از روی تعجب و انکار یا استهزا مسخره اما خدا تعالی به مسخریشون توجه نمی کنه خدا تعالی به انکارشون توجه نمی کنه به پیغمبرش میگه که به ذات من سوگند بخور که حقه قل ای یعنی بله ای یعنی آری بلی عذاب هست و ربی وظایف قسمی است و ربی سوگند بر رب من قسم بر رب من. این نهول حق همانا این عذاب حق است این عذاب واقع میشه وقتی که عذاب بیاد واقع بشه و ما انتم به معجزین شما آجسکونان کننده نیستید شما نمیتونید جلوی عذاب را بگیرید عذاب میاد و شما را بعد هم میگیرد.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 الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون در آیات گذشته بیان عذاب و بحث بحث مؤاخذه الهی بود حال الله عزوجل ذکر می میفرماید شدت عذاب را. اما شدت عذاب چنان شدید که اگر انسان در اون لحظه سخت آماده میشه، تمام آن چیزی که در زمین هست مال انسان باشه، آماده میشه همه را به عنوان فدیه و رهایی از عذاب بده. خلاسی از عذاب بده ولو انه لکل نفس ظلمت اگر باشد برای هر نفسی که ظلم کرده شرک کرده بر خود ستم کرده ما فی الارض تمام آن چیزی که در زمین هست تمام خزانه های زمین تمام سرمایه های زمین اگر مالش باشد لفتدت به البته فیدیه می ده همه میده تا خودش را آزاد کنه و اثر ندامت لما رأو العذاب این بیان ندامت مجرمین است تو دلشون پشیمانند خودشون را نفرین میکنند خودشون را ملامت میکنند اما این ندامت را از خجالتی مخفی میکنند و اثر ندامت لما رأو العذاب وقتی عذاب را میبینند ندامت را تو دلشون دارند خب الان که پشیمانه برگشت نداره راه برگشتی نداره آیا ممکن نیست عذاب برداشته بشه الله میفرمه دیر شده و قضیه بینهم بالقسط و هم لا يظلمون بین آنها به حق فیصله میشه و آنان ذره هم ظلم نمیشند ذره هم ستم نمیشند بعد از این عذاب که در آیات گزشته و در این آیه خاندیم هم بیان عذاب و شدت عذاب الله تعالی مجدد مسئله توحید را با دلائل عقلیش اثبات می فرماید الا ان لله ما في السماوات خبردار آگاه باش بیدار باش فقط و فقط برای الله است تمام انتصرفاتی که در آسمان هاست و هاست. اللہ هست و زمین هست الله قادر مطلق است و قادر مطلق هر چی وعده بکند هم میشه الا ان وعد الله حق خبردار وعده الله حق است وعده الله بالبعث والجزاء اینکه وعده بعث را می فرماید وعده جزاء را می فرماید وعده حساب و كتاب رمي فرميد اين وعده وعده حق است ولكن اكثر اكثرهم لا يعلمون اما اكثر اشان نمی دانند لا يعلمون بمعنى اعتقاد ندارند باور ندارند وإلا الله تعالى اعلام مي بعد باید علم حاصل بشه الان من شما می عذاب هست چون باورش ندارند هو يحيي ويميت الدليل ديجري از قدرت ببین ذاتی که قدرت داره قدرت بر احیاء و بر اماتا بر زنده کردن و میراندن او چرا نه وادهار دین و عملی کند شما قیاس بکنید به بقیه قدرت های الله هو یحی و یمیت و الیه ترجعون فقط و فقط بسویو برگردانده میشوید او حساب و کتاب را آغاز می فرماید یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم و شفاء لما في الصدور از این به بعد ترغیب الى القرآن است. این مواعظ بلیغ این مطالب زیبا و ناغذ در قرآن هستند و این هرا ما از قرآن می گیریم حال الله تعالی تشویق می فرماید بسوی خود قرآن مجید اما چهار فازل چهار فزیلت برای قرآن الله بیان می فرماید ببینی کتاب های دیگر ها را دارند قطعا ندارند یا ایوها الناس قرآن برای همه انسانیت است ای انسان ها فقط برای اهل ایمان نیست اهل ایمان استفاده میکنند، استفاده بحینه می اما بقیه هم باید استفاده بکنند یا ایوها الناس قد جاعتكم موعظتم من ربکم این نکته اول است از جانب رب شما برای شما موعظه آمده قرآن موعظه است قرآن واقعا کتاب پنده کتاب اندرزه کتاب اخلاق است اونقدر که مواعظ قرآن بلیغن مواعظ قرآن تأثیر گذار هستند هیچ کتابی مواعظش اینقدر تأثیر نیست و اون بقی مواعظی که ما داریم هرچی کتاب اخلاق تو دنیا است هرچی که معلمین اخلاق در دنیا بودند همه شاگردان قرآن هستند همه برگرفته از قرآن اگر یک کتاب قطوری شما می‌بینید در بحث موعظه و اخلاق هست در بحث این مسائل و این موضوعات هست او تمام اصول را از قرآن گرفته و بعد بر اون اصول شاخ و برگی مرتب میکنه فروعی مرتب میکنه پس قرآن فضیلت اولش اینکه موعظه هست و ما هم در بحث اعجاز هم گفتیم اعجاز قرآن از نظر موارد مختلف یکی از موارد موعیزه است بیارید کتابی مثل قرآن موعیزه داشته باشه انسان ها را تحت تأثیر قرار بده موعیزه از جانب رب شما انجا معلوم میشه من ربکم که فرمود نفرمو موعظه من الله من ربکم فرمود در این موعیز قرآن مجید الله تعالی تربیت ما را تزکیه ما را اصلاح ما را مد نظر فرموده در نظر گرفته پس مواعظ قرآنی بر اساس تربیت انسان هاست بر اساس اصلاح اخلاق ما هاست اون که قرآن میگه اگر ما بهش خوب عمل بکنیم تربیت شدیم خصوص در هر صفحه در هر آیه واتق الله واتق الله این بیات۔ این شگفتی ایجاد میکنه، این انقلابی ایجاد میکنه در دنیا. و دوم و شفاء لما فی الصدور، و این کتاب شفا هست برای اون امراضی که در سینه هستن. صدر و قلب محل امراض است. مراد از این امراض امراضی که انسان ها را به جهنم میبرد. مراد از این مریضی ها مریضی هایی که انسان را حلاک می کند اون مریضی ها قرآن شفا می ده اون مریضی ها شرک کفر نفاق بغض حسد تمام آلائش ها تمام بد اخلاقی ها تمام مفاسد اخلاقی قرآن اگر انسان شاگرد قرآن بشه زانوی تلمز جلوی قرآن بزنه همه اینها را قرآن دور میکنه. قرآن انسان را چنان از شرک بیرون میکنه، موحید میکنه، از کفر بیرون میکنه، مامن میکنه، از نفاق بیرون میکنه، مخلص میکنه، از بغض بیرون میکنه و انسان را دارای چنان اخلاقی میکنه که این انسان فرشته صفت میشه. پس و شفاء لما فی الصدور تمام اون چیزی که در سینه هاست هایی که در سینه امراضی که در سینه همه را قرآن شفا میده. بس بحث اینه که آیا قرآن شفاء امراض جسمانی هم هست امراض امراض طوری تفسیر کردیم همه مفسرین همینو گفتن طوری تفسیر کردیم که مراد امراض روحانی است. شرک و کفر نفاق آیه امراض جسمانی هست گرچه مفهوم این آیه برای امراض جسمانی نیست بسیاری از علماء می گویم با توجه به اینکه از از احادیث ثابت هست گرچه قرآن برای این نازل نشده که کسی بیاد قرآن را بلاخره وسیله و ابزاری برای درامد خودش قرار بده مغازه دکانی بزنه و شروع بکنه به از کنم دم و فوت کردن مردم ولی قرآن مجید چنان تأثیراتی داره که امراض جسمانی را هم درمان می رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن سور فاتح شفاست برای هر دا برای هر مریضی درمان هست رسول اکرم صلی علیه و وسلم در بسیاری موارد توصیه کردند برای بعضی از مریضی ها فرمودند که شما برای دفع سحر، برای دفع جن برای دفع وسواس، برای دفع بسیاری مشکلاتی که انسان با اونا مواجه هستند معوزتین را بخانید فوت کنید بر بدن خودتون هر شب بار بخانید خود آن حضرت میخاندند ولی از کردم اینجا مراد اون نیست اون هم هست که اگر کسی از آیات قرآن مجید خوب استفاده بکنه، الله تعالی در اینها شفا هم گذاشته درمان هم گذاشته بسیاری از آیات که مجرب هستند، بعضی ها تجربه کردند و بنده خودم معتقدم آیه خاصی که بگیم برای فلان مریزی چرا آیاتی که با بعضی از مریزی ها مناسبت دارند، ولی سوره فاتحه را برای هر مریضی فرموده و در اون آیاتی که صفات پروردگار است اون آیاتی که در این آیات صفات الله است بیان قدرت خدا است بیان از کنم که اینکه الله قادر است الله از کنم که قوی هست اللہ عزیزه اللہ غالبه اللہ حکیمه این صفاتی که مال پروردگار هستن اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و الملک من تشاء تشا و من تشا و دل من تشا این آیات را انسان وقتی که میخونه تجربه هست برای هر درمانی این آیات تأثیر گزار هستند. پس در معنی مریضی‌های جسمانی هم اما مراد اصلی مفهوم اصلی آیه امراض چی هست امراض معنوی شرک و کفر نفاق بقیه علی اشها و هدن سومین صفتی که قرآن به فرموده قرآن هدایت است هدن علما رحمته و هدن و رحمت عملا به چه معنا که این اصطلاحات را ہمیشه ما بکار میبریم یعنی اگر میخوایی که راه را ببینی بفهمی مسیر را مسیر درست را مسیر ایمان را مسیر نجات را اون مسیر را از قرآن بگیر و اگر میخوایی عمل کنی و رحمت خدا بر تو سرازیر بشه، بازم عمل به قرآن کن بس حداية از قران علما و رحمت هس عملا برای مؤمنین اینا اس کسانی هستن که از قران بعد از اینکه خدا خداوند عزوجل این وصف را فرمود میفرماید قل بفضل الله وبرحمته فبذلک فليفرحوا بگو خورسند و خوشحال باشند بفضل الله قبل از این بات واجب بفضل یفرحون بعد علماء میگن فلی یفرحو اینجا مقدر است فضل یفرحو بفضل الله و برحمتی بعض اون تاکید و تکرار است فبذالک الله یفرحو اللہ میفرمه بفضل خداوند و برحمت خداوند فضل چیه رحمت چیه بسیاری از مفسرات میگن هر دو تفسیرش قرآن است قرآن هم فضل خداست هم رحمت خداست بعضی میگویند که مراد از فضل قرآن است و مراد از رحمت توفیق ایمان است چونکه قرآن برای همه انسانیت فضل اما رحمت کسانی که توفیق ایمان دارند کسانی که قبول ندارند برای اونا رحمتی نیست اون کفرش اون کعرش باعث عذاب مرش میشه بسیاری گفتن فضل خدا قرآن است رحمت رسول الله صلی الله علیه وسلم است چون که و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین پس این چه تفسیری است در هر صورت قرآن مراد فضل و ال ام مراد از رحمت یا قرآن است یا از کنم توفیق ایمان است یا ذات رسول الله صلی الله علیه و سلم اس که رحمت اس الله می فرماید فبذلک فلیفرحوا بهن قرسان باشن به این ببالند، بالند به این افتخار کنند. هو خیر مما یجمعون این بهتر از ارزشمندتر است از آنچه که مردم در دنیا جمع می کنند، از اون چی که ان دوخته میکنند از اون چیزی که ان باشته میکنند ام تو انبره ذخیره میکنند این زخیره ذخیره بهتری است. چون این ذخیره هم در دنیا انسان را می درخشاند انسان را عزتمند می کند و هم در آخرت. این ذخیره ابدی و سرمدی هست جای اینکه برای اون یکی سرمایه گذاری کنی برای این سرمایه گذاری کن برای این وقت بزار برای این عمرت را صرف کن فبذالک فلیفرحو هو خیر من ما یجمعون بالخصوص صاحبان قرآن وغیر افسوس اونهایی که خدا بیشون علم قرآن داده اونهایی که خدا بیشون نسبت به بی قرآن داده طالب قرآن عالم قرآن اونها برند و به سمت مادیات و قرآن را کلن پشت سر بندازند این انسان واقعا انسان محروم و شقی هست. است چونکه این را اللہ تعالی فرموده که بهت داده الان بعضی مردم نمی به انها نداده به تو که داده تو بفهمید این برتر این از اون مادیاتی که تمامش درد سر تمامش رنجه تمامش بدبختیه اون نان را اون رزق را الله مقدر کرده میده لذا نباید صاحبان قرآن از قرآن فاصله بگیرند و برند به سمت مادیات به سمت زرق و برق دنیا و همچینی از اینجا میتونیم استدلال بگیریم استنباد کنیم که قرآن با اون مادیات در تضاد ده بدتر از اون بدتر از اون اینه که قرآن را انسان وسیله ارتزاق قرار بده قرآن را وسیله قرآن و دین را در واقع برای خودش دکانی قرار بده اینا در, در واقع دو تا هوو هستند دو تا دوتا دو تا هستند اما ایکی بیاد و قرآن را وسیله قرار بده که پول جمع کنه این بدتر میشه هو خیرون مما یجمعون قل ارائیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرام و حلال از اینجا الله تعالی وقتی که قرآن را شفاف فرموده قرآن همه مسائل را بیان فرموده حلت و حرمت هم در قرآن بیان شده اما مشرکان بعضی چیزها را از خودشون حلال قرار میدن بعضی چیزها را از خودشون حرام قرار الله می اللهم فرمات قل ارائیتم ما انزل الله لكم من رزق شما خبر بدید آن چیزی که الله نازل فرموده برای شما از رزق از هر عطایی که خدا داده فجعلتم منه حرام و حلالا شما از اون بعضی را حرام قرار دادی بعضی را حلال هرچی که دلشون بخواد یعن دین شده آلی دستشون آلیش هوا پرستیشون هوای نفس را نگاه میکنن قل آلله لكم لکم ام الله تفترون آیا الله اجازه داده شما یا بر خدا افترامی گوید این طور که ما دین را بازی چه دست قرار بدیم خیلی ها هستند امروز بازی از رسومات را سعی می کنند جا جائز قرار بدند سایی می یک توجیه شرعی و ایک کلاع شرعی براش درست کنند چیزهایی که اصلا در دین نیست همی مسئله عید نوروز هست بازی روایت درست کردند از بزرگان برای مشروعیتش برای اینکه برای تقدسش برای اینکه ما بل خدا هرچ بنهیم چرا هر چیزی را که ما دل میخاد ما نفسی نفس میخواد ما بیایم اون را برایش کلایش شریک توجی شری درست کنیم یه چیزی درست بکنیم الله اذن اما الله تفترؤم مدلایل محکم قوی داریم بر اینکه همه چیز در دین شفاف است حلال هم بیین هست، حرام هم بیین هست، موازح هست، روشن هست. اون در میان مشتبهاتی کس از اونها بگریز، از اونها فرار کن. لذا نباید انسان در باب حلت حرمت، در باب خرافات، انسان هرچی که دلش میخواد بر اساس هوای نفس عمل بکند، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامِ این زجر و هست بر کسانی که افترامی گویند دروغ میگویند خیلی ها هستن یه چیزی را اکثر اهل خرافات بخاطر حوای نفس بخاطر شکم پرستی بخاطر این بنوایی برساند شکمی از آزاد در بیارند می بینم یه سری رسمات درست می یک سری برنامهای ترتیب میدم بعد همه را به خدا نسبت میدن خدا در این این فزیلات را گذاشته خدا در این این اجر را گذاشته این افترابرالله است الله می فرماد اینها برای اینها وعید بیام می فرماد و ما ظن الذین يبترون على الله الكذب يوم القيامة چی هست گمانه کسانی که افترا گویم بر الله افترا دروغ در روز قیامت چی هست خدا اگر اینجا مؤاخذه نمی کنے خدا اینجا زود نمیگیره خدا فضل داره بر بندگانش خدا مهلت را برای توبه گذاشته برای بازگشت گذاشته و همچنین خدا فضل داد خدا چیزهای حلال و طیب و پاکیزه که به اندازه که مصرف کنید به اندازه که در دنیا زیق و حرج داشته نباشید هم فراوان قرار داده شما شاکر خدا باشید اما مصرف کنید ان الله لذو فضل على الناس الله دارای فضل است بر مردم ولكن لیکن لا يشكرون اما اکثر مردم سپاسگزار نیستند شکرگزار نیستند شکر این نیستن نعمت ها را نمی کنند و ما تکون فی شان و ما تتلو منه من قرآن قبلا هم گفتیم برای اینکه ما در واقع معبود به حق را پیدا بکنیم و اون را معبود قرار بدیم دو چیز شرطه یکی اینکه که کسی میتونه معبود به حق باشد که قدرتش تصرفش اختیاراتش فوق العاده زیاد باشه ما فوق الاسباب قدرت داشته باشه نه قدرت پوشالی یکی را زنده بکنه، یکی را آزاد بکنه. خودش روز بعد هم سرنگون بشه. نه، اون کسی که قدرتش ابدی و سرمدی باشه، موت و حیات بدستش باشه، تصرفات تمام زمین و آسمان بدستش باشه، او میتونه معبود من باشه. این شرط اوله، قدرت فوقالد. شرط دوم چیه؟ علم فوقالسبب. فوق یعنی از هر چی خبر داشته باشه. اگر من در یک جنگل تاریک قرار بگیرم او را صدا بزنم او از حال من خبر داشته باشه اگر من تو ده تا سلول ته به ته باشم اونجا او را فریاد میزنم، از اونجا خبر داشته باشه پس هم قدرتش کامل باشه هم علمش کامل این آیاتی که شما در گزشته خاندید بیان قدرت کامل بود وما تکونو في شان دلیل عقلي دیگری است بر اثبات توحید اما در این علمش کامله بيان علم کامل است الله می فرماید وما تکونو في شان آنچه که شما در هر کاری باشید در هر مشغولیتی باشید یعنی هیچ کاری نیست که شما اون انکار هستید وما تکونو في شان ما نافیه در هیچ کاری نیستی وما ما منه من قرآن وتلاوت تلاوت از جانب الله هیچ قرآنی را هیچ سورهای را هیچ آیای را ولا لا تعملون نمی عمل وعمل عمل نمی کنی هیچ عملی چه خیر چی شر ایلا كنا عليكم شهودا مگر ما هستیم بر آن استفیضون فی وقتی که وارد آن میشی وقتی که مشغول آن میشی وقتی که انکار را انجام میدی چه نماز هست چه تلاوت هست چه ذکر هست یاد خداست هس چه قفلت کاری نام شروع همه را ما ما حاضر و و ما ربك من مثقال في الارض ولا في السماء غائب یعنی از, از علم رب غائب نیست من مثقال ذره قبلا ذكرنا مثقال جاء تجرید است اندازه به یک ذره در زمین و نذر آسمان، ولا اصغر من ذالک، و نکوچکتر از مسقال، کوچکتر از ذره، ولا أكبر، و نبزرتر از ذره، إلا في كتاب مبين. مگر در کتاب مبين در لوی معفوس است. همه و همه. یعنی علم الله کامل هست، محيط هست، با ذرات هست، با جزئیات هست. از قار زمین هم خبر داره به قول علماء و عرفاء اون مرچهی که در ته زمین زیر سخری داره راه میره و غذای بسیار ریزی و کچلوی در دهانش هست الله او را هم میبینه هم صدای پای شرب میشنبه علمش محیط به کلی شیح هست پس اللہ عزوجل هم قدرتش کامله، هم علمش کاملی بعد از این اللہ تعالی کسانی را که بر اساس این قدرت و بر این علم با خدا ارتباط می گیرند و خدا را براستی و با خلوص بندگی می کنند که انها اولیاء خدا دوستان خدا هستند اونها را می فرماید چونکه به خدا تکه دادند به خدا توکل کردند هیچ خوفی نه در دنیا دارند نه در آخرت الی ان أولیاء الله خبردار آگاه باش همانا دوستان خدا لا خوفون عليهم ولا هم یحزنون خوفی نیست بر آنا در آخرت ولا هم یحزنون و آنها غمگین نیستن بر فراق دنیا. اذکر کردم غم حزن یکی زیاد که نسبت به گزشت هست یا نسبت به آینده. دنیا را اگر ترک کردند هیچ غمی ندارند چون انجا نیمتهای دارند که. سبحان الله دنیا فراموش میشه. یعنی که باره آینده یشون هم در بحثی چقدر غمی واندوهی ندارند درباره آینده داغ دغ دغدغه ندارند چون الله را دارند. معیتی الله باشون هست اما اینا کیا هستند اینا کی اینطور دلشون و خاطرشون جمع و راحتن ای اولیاء الله صفاتشون چیه در دنیایی که ما هستیم هر کسی میگه من اولیاء الله هستم من ولیم من دوست خدا هستم مدعیان ولایت زیادن اللہ تعالی اینجا دو تا مشخصه برای بیان فرموده یک الذين آمَنُوا کسانی که ایمان درست دارند ایمان مطلوب ایمان رب از کجا بی دونیم که ایمانش ایمان مطلوب ایمان درست ایمان به است ایمانش با کتاب خدا چی بیشه تطبیق داده بیشه آیا ایمانش عقائدش باورهایش ایمانیاتش مطابق قرآن است یا نیست اگر حس اون اولیاء اللہ است اولیاء اللہ است از کنم که دلیلش فقط پرواز کردن نیست حتما با کسی باش پرواز بکنے روی دیوار بشینے دیوار را برے و از کنم که مسلحش رو روی آب بندازے و نماز بخونه. شاید بودند بعضی بزرگان این کرامت را داشتند ولی دلیل ولایت اینیش خیلی ها هستند که اولیاء الله بودند اینها این, این کرامات را نداشتند ولی اولیاء الله بودند این صفات مهمه قرآن گفته ولی اینکه آلذین آمنو کسانی که ایمان داشت باشند و کانویت تقوون دوهم و و يتقون با تقوى باشا صفت دفعه مشون تقوى يتقون الكفر والشرك والمعاصي كلها بس كفر و شرك و معاصي أزعم ببريسا فس ببيني دوتا شرط لازم اين دوتا شرط را مقداري علماء باز کردند، تشری کردند، خوب اینجا به خانید نامه نامی هم نوشته بود که بعضیها چنین ادیاها ای دارند که ما میتونیم روی قلب شما تأثیر بذاریم، ما میتونیم با توجهی می که کمی قلب شما را پاکش و سشوب بكنيم نا. صاحبان این ادعاها نمیتونند ولی باشند صاحبان این صفاتی که قرآن میگه میتونن ولی باشند اول الذین آمنوا ایمان ارز کردم محق کی ایمان قرآن است ایمان را باید با قرآن تطبیق بدیم ایمان یعنی اعتقادش طبق دستور قرآن باشه عالم الغیب فقط خدا را می دونه چون تو قرآن امینه نافع فقط خدا را می دونه ضار فقط خدا را می دونه ارز مدبر و متصرف فقط خدا را می دونه اگر بقیه بزرگان و پیران را می دونه این مشکل داره تو ایمان مشکل داره این آمنو را حتی نداره الَّذِينَ آمنو امام رازی امام تفسیر می فرماید یک ولی الله من يكون اتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل شرطي اوليني کہ ولی الله کسی هست که ایمان صحیح و اعتقاد صحیح که بر اساس دلیل قرآنی باشه داشته باشه پس اگر تو عقایدش تمام گنده اما ظاهرش مرسح است مزین است آراسته است این نمیتونه ولی باشه ارس کنم که این در واقع ولی نما هست این بزرگ نما هست بزرگ حقیقی نیست و دفم و کانو یتقون تقوی باشه تقوی یعنی پرهیز از تمامه آلاش ها از شرک که بالاترین گناہ و معصیت و بالاترین ظلم از شرک گرفته تا معاصی کوچک معاصی دیگر که مربوط به هوای نفس و مربوط به مسائل جزئی تر است یعنی اعمالش هم اعمال مطابق قرآن و سنت باشه وكان يتقون شي ميگه امنوا عقائد را وكانوا يتقون اعمال الاسلاميگه اعمالش هم مطابق قران و سنت باشه دوومین نکته که رازی میگه شرط اول همون بود من يكون اطيئا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل و دومي دو و يكون اطيئا بالاعمال الصالحه على وفق ما وردت به الشريعه پای بند شریعت باشه این نیست که طریقتش خلاف شریعت باشه بعضی بخاطره بعضی گاندکاری های خودشون میخوان پاپوش بگذارن، میبینن کارهایشون مخالف سریح قرآن و سنت میگه راه طریقت چیزی دیگاست راه شریعت چیزی دیگاست این غلطه این در واقع یک کلاه کلاه شرعی میخواد بر مفاسد خودش بر اعمال سوء خودش بزاره. بعضی ها معتقل شیطان شیطان فریبیشون میده اینا استادشون شیطان هست صد درصد شیطان هست میگوین این به جایگاهی از قرب رسیده به جایگاهی از ولایت رسیده که دیگه نیازی نداره نماز بخونه نماز نمیخونه شب روز تسبیح به دستش هست در کنار مسجد از مسجد قهره از شرکت کردن در نماز جماعت امتنا میکنه میگه شما باکار اینها کار داشته نواشینا دیوانه خدا هستند دیوانه خدا باشه دیوانوار سجده بیکنه خدا را رسول الله را الله دستور میده و عبد ربک حتا یاتیک تا طادم موت رب تر عبادت کن اون هستی اون شخصیتی که الله می قد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تاخر حمر خدا معاف کرده اما این شخصیت این انسان الگوی ما رسول الله است ولی که خلاف سنت رسول اللہ باشیم ولی نیستیم ولی نماز ارز کردم شخصیتی که آخرین لحظات هست نمیتونه بلند بشه ای بلند میشه میگه وقت نماز شده دوباره غش میکنه دوباره از میفته آخر وقتی بلند میشه دو نفر او را میگیرند سیدنا علی و سیدنا عباس او را میگیرند یکی بازوی چپش میشه یکی بازوی راستش کشان کشانو را تا مسجد بی برند آیا اولیایی که ما میبینی منو ادعا می کنن این چینی نه لذا اولین علامت اولین و آخرین علامت ولی همین دوتا هست اعتقادش صحیح باشه عملش مطابق سنت رسول الله باشه هر وقتی که دیدید که ولی مطابق سنت رسول الله اس عقیدهش عقیده قرانی است اون ولی برش محترم اون در قلب ما جای داره ہمیں ماموریدش میشیم اما وقتی که خلاف قرآن باشه خلاف سنت باشه خلاف شریعت باشه حرفاش خلاف شریعته ولی هست به مریدش میگه هر وقتی که مشکل اعصاب مشکل روان مش... فشار برای رو میده شما پیر را تصور کن لا یعظمالله یا نام پیر را ذکر کن ورد کن خود خود سبک میشی راحت میشی این آیا عبادت زبانی نیست ما آیا در سنت داریم که ما بیایم نام پیامبرمون را ورد کنیم محمد محمد محمد اینا داری آیا تو حدیث وارد شده آیا هیچ عالم تعالی به ما گفته ما نام رسول الله را ورد کنیم چرا لا اله الا الله محمد رسول الله به عنوانه ارز کنم کلمه طیبه که بعد از توحید رسالتیشون را اقرار می کنیم. اما بگیم فقط در نام برکت است و نام را ذکر کنی و نام را ورد کنی کجای قرآن آمده کجای سنت آمده نسبت به اون انسانی که رحمت للعالمین است نسبت به اون انسانی که سید اولاد آدم است این نی آمده یک انسان معمولی میگه اسم من را ورد کن این نیست ولی این ولی نماست این دشمن ایمان است لذا الله می فرماید الذين امنوا وكانوا يتقون کسانک ایمان دارند اعتقاد صحیح دارند اعتقاد مطابق قرآن دارند و كانوا يتقون و اعمال مطابق سنت است تقوى پرهیزگاری دوری از معاصی دوری از خلاف سنت دوری از بدعات دوری از خرافات این ولی اللہ تعالی برائے این اولیامی فرماید لہوم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره آنان بشارت است در زندگی دنیا و در آخرت برائے آنان بشارت است بشارت در دنیا چیه بعضی میگه همین آیات که اونها را الله بیان فرموده و بشارت داده یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان انهار رب بشارت داده در همین دنیا که رحمت الله شامل حالش شما میشه رزوان الله الله شما راضی و خشنود میشه وبشرالذین آمنو وعمل الصالحات ان لهم جنات تجري پس یک نو بشارتی که در دنیاست آیات مجددهنده برای اولیاء خدا هستند و دوم حضرت حسن باصری رحمه اللهم دو تار زک می کنے قال, قال الحسن الاول ما يبشرهم الله تعالى في كتابه من جنته و کریم ثوابه بهش رمی اجر آجر می دے رضا دیدار و رؤیت می دے این ان بشارت نوی دفم از بشارت گاهي خداوند از رؤياي صالح بیش می دے بعضی وقتا شما وقتی که در خواب می بینید، این مجده پروردگار است یکی میگه من در خواب دیدم که من دارم خانه خدا را تواف میکنم من دارم آب زمزم مینوشم این بشارتی الله داره بهت میگه که تو مقبول هستی ادامه بده مسیر حق را مسیر طاعت و بندگی را و یکی میگه من خواب دیدم که خداوند را ملاقات کردم اینا بشارت هستند لذا صالح و صالح المسلم او یورا له خود مسلمان می‌بینه یا کسی دیگه براش می‌بینه کسی دیگه می یاد میگه که خواب دیدم شما تینیم بودید لذا لهم البشرة في الحياة الدنيا في الآخرة مشخصة لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله كلمات الله يعني الله و عدهای الله کباش ما دارن تغییر کند اقوال الله، سخنان الله، ذالک هو الفوز العظیم. این هست فقط این رستگاری بزرگ. ولا يحزن كقولهم. اما وقتی اینها گفته می اینها یا آیات خاند می‌شد. مشترکین که عهده مسخر بودند، هی مسخره می‌کردند، هی یک چیزی می‌فروندند. اللہ تعالی در لا بلا به حبیبش میگه این سخنان یاوی انها شمار حزین و غمگین نکنت ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا غلب مال لئے تسلط ما الله، است اللہ بوقت معاخذیشون میکنه هو السمیع العليم او همه اقوالشون رب میشنوه از همه احوالشون خبر داره اللہ تعالی بوقت انها رب بکیفر اعمالشون میرسنه باز هم ادامه دلیل توحید دلیل اقلی بر اثبات توحید ما دوتا دلیل خاندیم سفم الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض خبردار فقط و فقط برای الله تمام ان مخلوقاتی که در آسمان ها هستند عمز از ملائکه غیر ملائکه و من فی الارض تمام اون که در زمین هستند من برای ذوالقول میاد یعنی تمام بندگان مال الله مخلوق الله مملوک الله عبید الله چه انسان باشه چه جن باشه چه ملک باشه اما وما یتبعو الذين يدعون من دون الله شرکا پیروی نمی کنند کسانی که فریاد می زن غیر از خدا وندراش غیر از خدا من شرکا ایرا شریکان دیگر برای خدا از همین مخلوقی که برای خدا هستند ابید خدا هستند مخلوق خدا هستند مملوک خدا هستند رابطه همه اینها با خدا رابطه مخلوق خالقه خالق رابطه مملوک و مالک رابطه مرزوق و رازق همین هم ارزوق خدا هستند اینها را گرفتن به از خدا شریکانی اینا که شریکان را گرفتن نگرفتن این یتبعون الا الظن اینا در واقع پیروی نمی از تخیلات خودشون زن را ارز کردم تخیلات باطل خیالات بی اصل و اساس و این الا یخروسون خب این ها از کجا میگن این الا یخروسون نیست این مگر تخمینا زنن یک چیزی را میگن خرص از روی تخمین و بدون تحقیق و بدون دلیل را میگوین لیزا دلیل دیگر ببین خدا داره این تصرفات است آیا اینها این بندگان همین تصرفات را دارند نه چرا به آنها صفات خدایی میدید چرا به آنها صفات الوهیت میدید برای آنها سجده میکنی از آنها حاجت میخواهی اینا صفات الها هستند هو الذی جعل لكم الليل الله ذات هست که این تصرفات را داره قرار داد برای شما شب را لتسکنوا تاک سکون بکنید آرامش داشته باش اینا را چند بار تفسیر کردم تکرار نمی کنم و النهار و روز را مبصرا سبب بینایی سبب دید قرار داد ان فی ذالک لا اعیات یسمعون در همه این دلائل توحیدی در همه این تصرفاتی که ذکر میشه یک آیه یک نشان نه بلکه نشاناتاست برای قومی که یسمعون گوش میکنند کلام خدا را توجه میکنم به کلام خدا ببینید خدای تعالی هر چی که مخلوق و بنده هست من فی السماوات و من فی الارض، هست. همه مخلوق خدا اما الله تعالی اینجا عطاب میفرمه بر احل شرک زجر بیان میفرماید سلزنش میفرماید آنها را که باوجود اینها اینکه اینها مخلوق خدا مملوک خدا عبید خدا هستند قال اتخذ الله ولدا این زجر زر زنیشه الان میگه خداوند فرزند برای خودش انتخاب کرده اتخذ الله ولدا ببینید اتخاذ اونطوری که شیخ رحمه الله میفرما قبلا خدمتش ما کردن نظر شیخ بزرگوار ما شیخ حسین علی اینه که کسانی که برای خداوند فرزند گفتند، به غیر از اون جهلای مشرکین که میگفتن خداوند با دختران جنات ازدواج کرده، آل الله و اینها از جنات زاید شدن ملائکه بغیر از اونها بقیه کسانی که خودشون رو اهل کتاب می دونستن، دانشمند می دونستن، اونها معتقد بودن خداوند اینها را به عنوان فرزند خانده انتخاب کرده. نظر شیخینه یعنی فرزند حقیقی خدا نمیدونستند میگفتند مثلا ایسا را, را. میگفتند خدا به عنوان فرزند اینها را گرفته اتخذ الله اتخاذ بناش همینه نه اینکه از خداوند اینا زایده شدند متولش شدند درست شدند یعنی خداوند ایسا را بدون پدر پیدایش کرد تا فرزند خودش قرار بده فرزند خانده خدا فرزند خانده یعنی چه؟ یعنی نائب او را فرزند خود قرار داد تا بعضی از امور را به او بسپارد همون طور که یک انسان به فرزندش اعتماد داره بخشی از کارهای خودش را کارهای اقتصادی را مغازه را باغ را نمی دونم بقیه تجارت را به فرزند می سپاره شما این بخش کار بکن اینها همین اعتقاد را داشتن که خداوند به عنوان فرزند اونها را انتخاب کرده و بخشی از معموریتها را از امور را به اونها سپرده قال اتخذ الله ولدا الله می سبحانه. اللہ پاک است کسی فرزند بگیرد که نیازی داشته باشه خدا به نیاز است پاک است یک کسی که دارای فرزند که باشه میگه من فرزند دارم از فرزندانش هر کار میگیره یکی فرزندی نداره خدا بهش اولاد نداده یک فرزند صالحی رمی بینه میگه بیا تو فرزند من باشه تو قبول کن که من پدرت باشم با هم دیگه قرارداد پدری و پسری میبندند و بعدا از او مثل یک فرزند بهش اعتماد میکنه ازش کار میگیره، باش محبت میکنه چون نیاز داره خودش فرزند نداره نیاز داره پس فرزند داشتن یا فرزند گرفتن تبنی این دلیل نیاز هست سبحانهو الله پاک الله اللہ بینیاز است. هو الغنی او بینیاز است. کسی این کار رو میکند که چی باشد؟ نیاز مند باشه دلیل بینیازیش قدرتش را ببین له ما فی السماوات و ما فی الارض فقط و فقط برای اوز تمام تصرفات آسمان ها و زمین این عندکم من سلطان بهذا این این نافیه نزد شما هیچ دلیلی هیچ مدرک بین این که شما میگید خدا فرزن گفته دلیلتون چیه؟ اتقولون علاللہ ما لا تعلمون ایا بر خدا میگه اون چیزی که نمیدونید از روی جهل از روی زن از روی خیالات بی اساس قل ان الذين يفترون علی الله الكذبه لا یفلحون این جا سرزنه شو عتاب هست همراه با تخویف اخروی ای محمد صلی الله علیه و سلم اعلام کن همانا آنهایی که افترا میگوین بر خداوند دروغ را و چنین نسبت های ها ناروا میدن لا یفلحون اینا نمیشن خب ببینید این که اتخذ الله و ولدن عرض کردم شیخ می منظور تبنی هست خاندگی هست یا بگیم منظور هم نائب بودن هست پس کسانی که در زمان ما هستن عقیده اونها هم با این عقیده زیاد فرقی نداره مثلا به بعضی از اولیاء الله میگم خداون اینها را به عنوان نائب خود انتخاب کرده برگزیده بعضی از امور را به آنها سپرده مثلا اهل خرافات از قدیم و اهل خرافات جدید همین اعتقاد را دارند که خداوند در هر منطقی از مناطق نائبانی دارد بعضی از بندگانی که به قرب خدا رسیدند به نزدیک خدا رسیدند از بس که خدا را عبادت کردند رتبه بالای کسب کردند اینا وقتی که میمیرند خدا تعالی میگه که ارواح اینها رو میگه در همون منطقه خودتون دور بزنید گشت داشته باشید بچرخید هر کسی مشکلی داره مشکلای کوچولوی را داره از از شما بخواد شما بهش بدید بی از جانب من به شما بعضی اختیارات میدم کسی فرزندی خواست بهش بده بی کسی خواست رزق روزیش برکت داشته باشه رونقی داشته باشه بهش بده بی کسی شفا از مریضی خواست بهش بده بی لذا به اینها میگه خدا تعالی یک نو نیابتی میده معاونتی به عنوان معاونه خودش انتخاب میکنه در بعضی از مناطق بعد به مردم میگه که برای اینها گزفند بکشید اینها را صدا بزنید نام اینها را بگیرید تو نام اینها خیر هست برکت است، چون اینها به من بسته هستند اینو نوع عقائد همون چیزی هست که یهودو نصاره اعتقاد داشتند باور داشتند الله میفرماید که اتقولون الله ما تعلمون بر اساس چه دلیلی؟ بر اساس چه مدرکی؟ خیلی چیزها را رمون تور که علام آلوسی می فرمود که بعضی می که اولیاء الله بعد از مردن خودشون میان تو زمین تصرفات دارند از می پرسید اذا تولیبو به تو دلیل ازشون مطالبه میشه که خب تو که اینا می دلیل چیه تو کدوم آیه آمده تو کدوم حدیث آمده میگه گوید ثبت ذالک بالکشف این با کشف ثابت شده این روایت شده این بالاخره برای بسیاری از مردم کشف و ظاهر شده که آلوسی ناراحت میشوی که قاتلهم الله این چه دلیلی که داری میگی لذا الله هم اینجا فیا میفرماید که اتقولون علی الله ما تعلمون چیزی که نمیدانید قل ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون اینها رستگار نمی شوند اینها هیچ وقت موفقیت را نمی بینند و در دنیا چند روزی بالاخره اگر استفاده می کنند چند روزی را بسر می کنند بلاخره بعدا در دادگاه عدل الهی نها حاضر می شند اینها به خاطر این خرافات این شرک گوییشون محاکمه می شند مطاعون فی الدنیا چه این شبه هست که خداوند وقتی که اینها بر خدا افترام می از اینها انسان مجرم تر نیست چرا خدا اینها را مؤاخذه نمی کنه بنا نیست در دنیا هر مجرمی مؤاخذه بشه متاعوم فی الدنیا بهرهگیری اندکی هست در دنیا چند روزی در دنیا بحر می گیرد از زرق و برق دنیا استفاده می کند ثم ایلینا مرجعهم سپس بسوی ما بازگشتشون باز هست ثم نذیقهم العذاب الشدید سپس ما می چشانیمونها را عذاب شدید را بما کانو به بسبب افترا بسبب این دروغ پردازی هایشون بر خدا افترا از این گناه بزرگتری وجود نداره از این ستمی بزرگتر وجود نداره حال اللہ عزوجل بعد از اینکه که دلائل را بیان فرمود اثبات فرمود عقلا دلائل عقلی تصرفات خودش را اختیارات خودش را بینیازی خودش را غدرت مافوق الاسباب خودش را حال نمونه ذکر می نمونه تخویف دنیاوی نمونه عذاب همین مطالب را انبیاء من گفتند نوال علیه السلام گفت موسی علیه السلام گفت قوم نپذیرفت ببینید انجام و عاقبت قوم چی شد شما مخاطبین قرآن شما کسانی که مدعو هستید رسول الله شما را دعوت داد و جانشینان رسول الله شما را دعوت دادند و میدهند شما اگر ابا کنید انکار کنید تکلیف شما عاقبت شما همون خواهد بود که با اون امت رفتار شد الله می‌فرماید و اطلوا علیهم نبأ نوح تلاوت کن بخان آنان خبر نوح را اذ قال لقومه زمانی که نو بقومش گفت یا قوم ای قوم من امکان کبر علیکم مقامی و تذکیری اگر سنگینت بر شما بر شما جایگاه من مگر نوح چه داشت پادشاه شده بود رئیس بود امر نایمی کرد نه. نا و تذکیری تفسیری هست،, عطف تفسیری هست یعنی پند من اندرز من من که در این جایگاه خدا مرا قرار داده که من واعظ شما باشم من فرستاده خدا سوی شما باشم اگر این بر شما سنگین است تذکیری به آیات الله که نسبت به آیات الهی من شما را یاداوری میکنم آیات تکویلی را برای شما بیان میکنم آیات تنزیلی و تشریعی را شرح میدم. این بر شما سنگین است و نارهتید میخوایید با من مبارزه بکنید میخواید بر علیه من توطعه بکنید بکنید الله توکلت پس فقط و فقط بر خدا من توکل کردم فاجمعو امرکم و شرکاکم جمع کنید تمام تدبیرتون را امرکم یعنی تدبیرتون تمام توتیتون تمام نقشیتون را جمع کنید و شرکاکم خدایانیتون را هم جمع کنید ثم لایکن امرکم علیکم غمه سپس امر و تدبیر شما برای شما اصلا پوشیده نباشد یعنی هیچ کتایی نکنید ثم قضو ایلی ولا تنظرون سپس بر علی من فحسل کنید به من مهلت نجهید نو علیه السلام این قد دلش قرسه با این قاطیت میگه چون پشتش خدا را می‌بینه، خدا پشتیبانش هست فا انتواللهتم اگر شما اعراض کردید از سخنان من از مواعز من از خیرخواهی من مگه من شما پول خواستم دلیل اعراض شما چیه؟ من از شما شهریه خواستم فما سألتو من اجر من از شما هیچ اجری نخواستم ان اجری الا علی الله اجر من نیست مگر فقط بر الله است و امرت ان اكون من المسلمین من که آمدم یک الگوی عملی برای شما هستم من از سوی پروردگار فرمان یافتم که از مسلمین باشم یعنی منقاد پروردگار باشم اعتقادا و عملا تسلیم بشم بالاخره پیامبر با این خیرخواهی با این وضوحت تبلیغ کرد راهنمایی کرد قوم چیکار کردند الله می فرماید فکذبوه ورا تکذیب کردند نتیجه این تکذیب و نتیجه اون تبلیغ فنجینا فنجینا ان نتیجه تبلیغ و نتیجه انابت و حرف شنیوی و ممنعه هم او نجات دادیم هم کسانی که گوش بفرمان او بودن کسانی که از او حرف شنوی داشتن کسانی که اطاعت کردن اصحابنو یاراننو انہارا ما نجات دادیم فی الفلک در و جعلناهم خلائف انہارا جانشینان زمین قرار دادیم انہارا جانشینان زمین قرار دادیم وأغرقنا الذين إن نتيجة تكذيب ونتيجة مكذبين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أناني كآيات مارا تكذيب كردن دلائل محكم مارا تكذيب كردن مغرق كردين نابود كردين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين اي مخاطب ببين درس بگیر عبرت بگیر ببین و درس بگیر که چگونه شد عاقبت و انجام منذرین ترسنده شدگان اونهایی که از عذاب الله بیم داده شدند ترسنده شدند ولی نترسیدند ابا نکردند پروان نکردند لذا ببین انجامشون چی شد؟ معنیشینی که ای مخاطبین هر کسی از شما مثل اون قوم متمرد رفتار کرد همون تمرد و سرکشی را کرد آقبت این هم و آقبت ای. این نمونه ای اول تخویف دنیاوی نمونه های دیگر الله به صورت اجمال ابتدا فرماید ثم بعثنا من بعده رسلا بعد از نو رسول و الى قومهم قوم فجاهم بالبينات آنها به قومی آمدند با بینات آمدند با فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به همین قبل نبودند که ایمان بیاورند به بی اون پیامبران به اون پیامبران چرا علت محرومیتشون چی بود به معکزه بود به عمل کرد خودشون به سبب که تکذیب کردند آن را قبل از آن قبل از اینکه پیامبران قبل از اینکه عذاب بیاید تکذیب کردند انکار کردند لذا کذالک نتباعو على قلوب المعتدی این کاف را مفسرین میگن کاف تعلیلی است یعنی لذالک چون تکذیب کردند چون انکار کردند به همین دلیل ما مهر میزنیم بر قلوب متجاوزان یعنی وقتی که اونها تمرد میکنند اونها سرکشی میکنن اونها تکذیب و جدال بالباطل میکنن ما هم یک مهر میزنیم که دیگه اصلا هدایت نصیبش نشه بزار تا دنیا و آخرتش خراب بشه پس کلا بلران على قلوبهم ما كانوا يكسبون چرا خدا مار میزنه به سبب عمل کرده خودش به سبب تعصب و به سبب انادی که تمام اون قلبش را اهت کرده امروز هم تمام کسانی که در مسیر خلاف قرآن هستند در مسیر شرکند در مسیر خرافاتند اگر که تعصب را کنار بزارند، اگر اناد را کنار بزارند، بیایند واقعا دلائل قرآن را بدون تعصب بررسی بکنند هدایت نصیبشون میشه میفهمند، درک می, می اما کسانی که از همون ابتدا بدون تحقیق بدون بررسی فقط مبارزه میکنند معارضه میکنند فقط مقابله میکنند اونها به جای اینکه با که دانشمند باشند با وجودی که عربیدان باشند با وجودی که اینکه مله و اخوند باشند استاد و فیلسوف باشند و هزم هدایت از هدایت محروم میشد محرومیت از هدایت به خاطر جهلیست خیلی از جاهلان ایمان آوردند خیلی از عالمان زد کردند پس محرومیت به خاطر چی خواهد بود به خاطر عینات به خاطر تعصب الله می فرماید به همین خاطر ما مهر می‌زنیم به قلوب متجاوزان خب پس بعد از نو سلسله از انبیا گذشت جمع بزرگی از انبیا گذشت تا آمد به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و بعد از اونها موسی اما ذکر موسی در قران برجسته‌تر از قبلا دلایلش را خدمت شما عرض کردم چون خیلی شباهت دارد جریان موسی با جریان رسول الله مشقت‌های موسی با مشقت‌های رسول الله و نوع انکار کسانی که موسا را انکار کردند با نوع انکار کسانی که رسول الله را انکار کردند الله می فرماید ثم بعثنا من بعدهم موسا حال این دلائل رشم قبلا خاندید به ترجمه بسنده می کنیم ثم بعثنا من بعدهم موسا سپس ما فرستادیم بعد آنها موسا و هارون را الى فرعون وملئه بسوی فرعون ودرباریان فرعون ومقربان فرعون بآیاتنا همرا با دلائل خودمون همرا با دلائل فرستادیم اما انها چیزی چیز باعث محرومیت شد استکبار غرور فاستکبرو دلیل اول فستکبرو انها تکبر کردن از خود غرور نشان تکبر صفتی است که الله عز بسیار بر تکبر ناراضی میشه قذب می فرماید تکبر انسان را از خیلی از خیرها محروم می کند. و علت دفم و کانو قومم مجرمین اینها قومی جرائم پیش بودند در گذشته تمام زندگی اینها زندگی جرم و تخلف بود همیش شکنجه همیش ظلم همیش با بنی اسرائیل بد رفتاری، همیش با زیر دست ها ظلم و شکنجه قبلا هم ارث گردم گنا میاره و گناہ محرومیت میاره لذائنا چون کہ از قبل مجرم بودند لذا محروم شدند فلا ما جاءهم الحق من عندنا زمانی که حق از جانب ما آمد قالو ان هذا لسحر مبین آنان گفته این جادو آشکار است موسی علیہ و السلام چه جوابیداد داد قال موسی اَتَقُولُونَ للحق لَمَّا جَالْكُمْ اَسِحْرٌ هذا. اینا همون چیزی که ابو جعلو امصال ابو بقرآن گفتند سحر است برسول الله گفتند قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم آية آماديب آية میجوید به حق للحق يعني یعنی در درباره حق وقتی که این حق پیش شما آمده آیا شما میگوید اسیح هذا این جادو هست در حالی که ولا یفلح الساحرون ساحرا موفق نمیشن اما فرعون ببین که کارم روز به روز به پیش میره روز بروز ترقی می کنم روز بروز پیروانم بیشتر می شه روز بروز تاییدات الهی هست روز بروز آیات خدا شما گرفتارتر می شید مشکلات شما بیشتر می شه همچینین رسول الله صلی علیه و سلم روز بروز به پیش می رفت گرویدگان بیشتر می شدند مریدان بیشتر می شدن، اصحاب بیشتر می شدن، بلاد بیشتری فتح می شد، قلوب بیشتری تسخیر می شد، روز بروز برای مشرکین و اهل مکه بیشتر بلا می آمد، بیشتر مشکلات می آمد، بیشتر بدبختی می آمد، این تمام دلیل چی بودن؟ دلیل اینکه نبوت خوب بپیش پیش میره دلیل اینکه حمایتی الله همراه هست، لذا موسی همین گفت، ولا لا يفلح الساحرون اما فرعون و فرعونیان و قوم فرعون عینن همون چیزی را گفتند که مشرکان مکب رسول الله گفتند قالوا اجئتنا گفتند آیات تو پیش ما آمدی لتلفتنا على اما وجدنا عليه ابانا تما ما ربگردانی از آن دینی که ما یافتیم بر آن پدران را و تکون لكم الكبرياء في الارض و بزرگی برای شما در زمین باشه شما آمدید که رئیسی ما بشید پادشاہی ما بشید شما برای این آمدید لذا برای این خاطر این روزی کسی از ابو جهل پرسید که راستش را بگو تو را به خدای کعب سوگن میدم که واقعاً محمد برباطل ای. ابو جهل گفت که ببین این بنو هاشم همه چیز به دستین ها هست مجاورت به دستین ها هست سقایه به دستین ها هست بعضی از مسئولیت هایی که مال خانه کعبه بود چون رقابت بود رقابت تیره تیره بود گفت الان نبوت هم مال اینها ها باشه نه من این هیچ قبول نمی کنم پس اون مشکلشون همین بود اونا هم به موسی گفت آمدی که تو مرجعی ما باشی شما بزرگتری ما باشی ما بیام این همون ت تکبر انسان را بد باخ میکنی و تکونا لکم الکبریا فی الارض باشد برای شما کبریا و بزرگی در زمین و ما نحن لکم بمؤمنين ما به شما بهیچ هیچ ایمان نمی آوریم و فر تدبیر کرد بیچاره بگمان خودش مبارزه کرد بانو بوفت وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فرعون گفت بیارید برای من هر جادوگر ماهر هر جادوگری وارد وارد و ماهر بیارید تاکی من منی شکست بدم فلما جاء السحره قال لهم موسى القوما ما انتم تلقون کی شما تفصیلی شرح اندید و ناز موسا پرسیدن شما ولی ما موسا به اونها گفت که شما آل قوما انت شما بین دزید هرچی میخوای بین اجرا کنید جادویی که میخواد اجرا کنید نشان بدهید فلما آلقو زمانی که اونها انداختن قال موسا ما جئتم به السحر ان الله سيقتله ان الله لا يصلح عمل المفسدين موسى عليه الصلاه والسلام گفت اون چي كه آوردید آورديد اون جادو اي الله تعالی عن قریب باطل بھی کنے ان قريب باطل بكنه اونرا را كه ان لته ان الله لا يصلح عمل المفسدين انت كازايره براي هر جادو جادوي بخاني ان شاء الله مفيد ميشه هر كسي كه بر او جادو شده مجرب است روی آب بخون بده بخوره یا بخون یا به خودش بگو بخونه بهتر این از کار اوراد و آیاتی که آمده بهتر که خود انسان بخونه زا قال موسی ما جئتم به السحر موسی گفت آنچه شما آوردی این جادوئه ان, ان الله سیبتله خدوانن قریب باطلش میکنه ی اگر سین ربمانه تقریب نگیریم به معنی تاکید بگیریم حتما حتما خدا باطلش میکنه چرا چونکه ان الله لا یصلح عمل المفسدين خدا عمل مفسدین رو هیچ وقت بسرانجام سرانجام نمیرسونه اصلاح و درست نمیفرماید و یحق الله الحق بكلماته ولو کرها المجرمون خداوند حق را اثبات میکند یعنی معجزه را معجزه همون عصا و عجده بود اون را اسمات می کنن به کلماتی بسبب وعده هایی که خدا وعده داده ولو کری حل مجرم اون گرچه مجرمان نخان نپسندند اون باشه بالاخره موسیٰ علیه صلی سلام شکست داد اینجا به صورت اجمال آمده جادوگران ایمان آوردن جادوگران متوجه شدن که ما بر مسیر غلطی قرار داریم اما وجود این تعداد اندکی به موسی ایمان آورد چونکه از فرعون می ترسیدن فما آمن لی موسی الا ذریتم من قومه ایمان نیاورد برای موسی مگر ذریه از نسل خود موسی از قوم خود موسی یعنی اولاد خود بنی اسرائیل ایمان آوردند. اما اینها هم خوف و خطر ایمان اینها هم غاچاغی بود ایمان اینها هم از ترس بود همونطور که ایمان بسیاری از اهل مکه به رسول الله ایمان آوردن با ترس و با لرز بودن در دار ارقم مخفیانه می رفتند این طرف اون طرف نگاه می کردن کسی نبیند علا خوف من فرعون و ملائهم از فرعون و درباریان فرعون ان هم این یفتنهم از اینکه اونها را به مسیبت گرفتار کنند به فتنه گرفتار کنند چرا فرعون این کار را می کرد دلیلش اینه که و این فرعون لعال فی الارض همانا فرعون لعال فی الارض در زمین متکبر بود و اینه لمن المصرفین او از متجاوزان بود او بیش از حد تجاوز می کرد ظلم و ستم می کرد در ظلم و ستم زیاد روی می کرد از حد گذشته بود. وقال موسیٰ یا قوم اما تلقین موسوی یک پیامبر و یک دعیه حق همیشه پیروان خودش را دوستان خودش را یاران خودش را تلقین میکنه به توقل تلقین میکنه به صبر و ثبات باستقامات لذا موسى گفت وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله اي قوم اگر شما ایمان آوردی به خدا اگر ایمان تو واقعی است فعليه توکلوا فغت وفغت بر او توکل کنید كنتم مسلمين اگر شما مسلمان و منقاد واقعی قوم گفتم فقالوا على الله توكلنا. فقط فقط بر الله توکل کردیم توکل کردیم و دعا کردن انسان هم توکل داشته باشه بر رب و هم مناجات الله تعالی از هر مخمسه نجاتش میده ازهر محله و مشکل فقالوا على الله توکلنا فقط وفقت بر الله توکل کردیم و دعا کردیم مناجات اول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين بارلا ما قرار نده فتنه برای قوم ظالم یعنی علی دست قوم ظالم که ما را شکنجه بیده فتنه ببینه عذاب هم میاد چندین جشمان خاندید ما را شکنجه بیده ما را عذیت و آزار برسونه عذاب بیده ما را قرار نده ما را یعنی انها را برما مسلط نگردان و ما را گیری انها نئی انداز و نجنا برحمتکا و این مناجات دو مس ما را نجات با رحمتت نجات بیده من القوم الكافرین از قوم کافر از قوم ستمگر و منکر خودت ما را نجات بده الله تعالی دعا را قبول کرد اما مقدمه نجات یک سری اعمالی هست اگر می‌خواهیم یاری خدا با ما باشه اگر می‌خواهیم نصرت خدا با ما باشه لذا اول خوب خدا را عبادت کنیم خوب با خدا ارتباط بگیریم. اگر نمیذارند، این برای بلادی هست که زندگیشون زندگی بنی اسرائیل گونه هست. قاچاقین نماز میخونند، نماز نمیذارند اونها را. برای ابدادت نمیذارند، آزاد نیستند بر اونها ظلم بر اونها ستمه. اونها تنها راه نجاتشون این چیزهای اسکین جا خاندی. کل به خدا، مناجات. نماز نماز هست که فرج میاره صبر و نماز استعینو بصبر و صلاة این دو ابزار را بگیرید از خدا کمک بگیرید لذا الله می فرمید و اوحینا الی موسیٰ و اخیه ما وحی کردن بی و برادرش ان تبوع لقومکما بمصر بیوتن برای قوم خودتون در مصر خانه های شما آماده کنید و این خانه ها را نماز خانه قرار بدید و و بیوتکم قبله خانه هایتون را قبله قرار بدید من مطلبی قبلا خدمت شما ارز کردم که تمام امت های گذشته عبادتشون فقط در عبادت خانه جایز بود در محل مخصوص بیرون اون نمیتونست تونستن عبادت بکنند لذا ابتدا که موسیل صلی و سلام، اونطوری که مفسران نوشتند بنی اسرائیل را ترغیب دادند ایمان آوردند بنی اسرائیل قبول کردند و بعد از اون عبادت خانه های درست کردند موسیل صلی اللہ وسلم مراکزی جاهایی برای عبادت بنی اسرائیل درست کرد ونجا خدا را عبادت میکردند فرعون وقتی که به اوج غرور و تکبر رسید و به اوج عصبانیت رسید این مساجدشون را این معابدشون را تخریب کرد با خاک یکسان کرد لذا الان انکار بکنند ما امت ما فرق میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند به من چند تا خصوصیت دادند که به انبیاء دیگه ندادند در یک روایت پنج تا میاد یکی از اونها اینه که جعلت لی الارض و او کما قال علی سلات واسه سل. تمام زمین برای من مسجد قرار داده شده یعنی من و امت من هر جا نماز بخونیم اگر میریم بازار تو مغازه نماز میخونیم اگر میریم جنگل تو جنگل نماز بخونیم اگر تو جزیره نماز بخونیم اگر در هزار در سفر در ارز کنم راه در هر جا که نماز بخونیم زمین مسجد ماست اونجا محل سجده اما اون پیشینیا نه اونا باید عبادتشون تو عبادت خانه میشود خلا عبادت خانه را فرعون از بین بورد چکار بکنند الله فرمود جای گزینشون را درست کنید تو خونه هایتون نماز خانه های درست کنید تو اونها نماز بخونید وجعل بیوتکم قبله یعنی خانه هایتون را قبله قرار بدید یعنی محل عبادت اونجا را از اونجا متوجه الله بشید و اقیم السلاة این علاج هست این نجات هست این درمان هست نماز را برپا بدارید و بشر المؤمنین و بعد از اینکه الله علاج را بیان فرمود راهکار داد بعد از اون خداوند اعلام نجات هم می فرمد و بشر المؤمنین مؤمنین را مجده بده خوش خبری بده که اون فتح و اون پیروزی و موفقیت نزدیک شما ادامه بدید به ذکر به نماز و به مناجات و قال موسی ربنا انك اتيت فرعون وملأ موسى و لذا موسی على مناجات بھی الان دیگه وقتی عذاب نزدیکه بعد از اینکه پیغمبر دست به دعا بردار پیغمبر کار میکنه زحمت میکشه تلاش میکنه بعد از اینکه معیوس بشه نو علیه الصلاۃ سلام باز اعتراض میکنه چرا گفت رب لا تذر على الارض من الكافرين دياره چرا برای اون نابودی اونها دعا کرد بعد از 950 سال دعا کرد مدتی کم نیست بعد از اینکه خدا هم بهش گفت ایمان ایمان آورند و اوحی الى نوح انه لن يؤمن من دیگه کسی ایمان نمیاره این وقت دیگه دعا میکنه این وقت دوست دیگه موسی علیه الصلاه و السلام بنا بر گفته مفسران چهل سال با فرعون کلنجار رفت تبلیغ کرد هر گفت فرعون همیش تمرد همیش انکار لذا بعد از این مدت همون طور اینجا هم اعتراض نشه که چرا موسا انگوونه دعا کرد که خدا ی اینہا توفیق هدایت نده چون خدا بهش گفته بود که نه دیگه ایمان نمیاررد لذا الله می فرمید وقال موسیٰ ربنا انك آتیت فرعون وملئه بار الات فرعون وملئش را دربانی ارش را مشاغرانش را وحمچنی کابینش را زینتا زینت زیبائی دادی تجملات دادی و اموالم ومال دا مال و مال دادی مال تجملات زیاد دادی فی الحیات الدنیا در زندگی دنیا ربنا لیضلو عن سبیلک این لام لام عاقبت از خدا یا این مال را دادی اونا از این مال چسو استفاده می عاقبت و انجامی می شه که گمراه میکنند از راهی تو یعنی از این مال بهره برداری سو کنند مردم را تحت فشار قرار می دهند چون قدرت دارن چون مال دارن لذا خدای اول مالهاشون رو از بین ببر رب نتمس علی اموالهم بار الها مالهاشون رو کن محو کن نابود کن و شدود علی قلوبهم و دلهاشون را سخت کن سانگ کن فلا یؤمنو حتى یروا العذاب الالم ایمان نی آورند تا عذاب دردناک را ببیند یعنی چی؟ یعنی از ایمان محروم میشون کن چونکه شعنشون همین همونطور که تو گفتی خدا یا همونطور که فرمودی نه ایمان نمی پس ایمان نی تا عذاب را ببیند خدا گفته بود در آخرین لحظه اینها می ایمان میارند ایمانشون قبول نمیشه الله ما آلوسی گفته ای اجعلها قاسیتا دلشون را سنگ کن سخت کن وطبع علیها بر اون مهر محرومیت و جباریت بزن حتی لا تن شرح لیل ایمان تا ایمان دل باز نشه کما هو قضیه تو شعنی اما که شانشون حسب فرموده تو این هست لذا فلا يؤمن حتى يرى العذاب الئيم الله تعالى می فرماید قال قد اجيبت دعوتكما موسی هارون دعای شما قبول شد خب اینجا بحث دعای هارون نبود معلوم میشه که یکی که چی میکنه یکی دعا میکنه یکی امین میگه این امین گوینده هم دعا کننده هست چون بحث دعای فقط موسی بود، قطعاً موسی دعا میکرد، حالا هارون چی میکرد؟ آمین میگفت. لذا الله میفرماد: قد اجیبت دعوت دعای شما هر دو قبول شد، فستقیما هنوز استقامت کنید. و دستوراتی که میدم ونهار اجراكوني ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون شما دومباللكونيت پیروي نکونيت راه اونهاي كه نميدانند علا اي حال الله تعالی داستان را مفصل شما قبلا خاندید در سوره هود هم ميخوانيد وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ما عبور داديم بني اسرائيل را از دریا فاتبعهم فرعون فرعون هم اونها را تعقیب کرد هم اونها را دنبال کرد و جنوده و نتنها فرعون تمام لشکرش تمام سپاهیانش چرا دلیل دنبال کردن چی بود دلیل تعقیب چی بود اون بیجاره رفتن به ملکشون شام رفتن چکار داره فرعون؟ بغی اون وعدوها چون به دلیل زرم و به دلیل تعدی چون میخواست بر اونها ظلم بکنه میخواست بر اونها تجاوز بکنه این همه سال های ها سال شکنجه داده بود یک عمر بسش نبود هنوز یک ستمگر یک خونخار هر چی که بیشتر ستم می کند، بیشتر حال می کند با ستم کردن لذا خوی او قرار گرفته بود ظلم و ستم لذا بغیم وعدو اما حتی اذا ادرکه الغرق زمانی که غرق او را دریافت زمانی که غرق شد تو آب قال آمن تو این ایمان است اما این ایمان همونطور که قبلا بحث کردیم ایمان بحث است قال آمنت گفت ایمان آوردم به این مطلب که لا اله الا الذی نیست معبودی خدای دیگه نیست نه من نه من الا الذي آمنت مگر او معبودی که ایمان آورده به او بنو اسرائیل و انا من المسلمین من نمازیم بعد تسلیم میشم از مسلمین اسم اعتقادا و الله گفت آلان یعنی آلان در روایت هم که جبرائیل یک گلی برداشت مشت گلی زد تو دهنیس و گفت آلان آلان ایمان آوردی آلان وقت دیشه و قد عصیت قبلو قبل زینتو نافرمانی کردی و کنت من المفسدین از مفسدین بودی از انسان های فاسد بودی فلی یوم ننجیک امروز ما نجات میدیم بدنت را لی من لمن خلفک آیه تا برای پشت سریها عبرت باشم ببین فلی یوم ننجیک ببدنیکا معناش چی هست اون زمان که همه غرق شدن دو از بین رفتن فقط جسد فرعون را رودخانه زد بیرون همه دیدند همه دیدندلا حکمت های زیادی اهل تفسیر بیان کرده اصل حکمت اصلی همینه که قرآن بیان میکنه که عبرتی باشه فراموش نشه این جریان تا زمانی که این جسد باشه عبرت باشه اما اینکه واقعا امروز اون چیزی که در موزه هاست و می جنازه فرعون این همون جنازه هست آیه قرآن همین رتعید می کند قرآن با این کاری ندارد ما با این بحثی نداریم. اون وقت الله نجات داد اون وقت همهگان دیدند بعضی می یکی از حکمتهایی بود که بنی اسرائیل چنان بر دل و دماغ اونها بر روح و روان اونها فرعون کار کرده بود و ظلم کرده بود و ستم کرده بود که اینها یک تصور خدایی ازش داشتند وقتی گفته می فرعون فران می لرزیدند لذا اگر جسد فرعون نابود می و ناپدید می شد اینها شاید فکر میکردند هنوز فرعون رفته جایی برمیگرده به این خاطر خدا جنازه را داخل جوش شد و حتی در بعضی تفسیرا است که وقتی جنازه بود از جنازه هم می ترسیدند موسی گفت نه این مرده تمام شده لذا الله می فرماید ما امروز نجات میدیم بدن تو را لتکون لمن خلف ایا تا که برای پشت سر تو عبرتی باشد جسدش تا دیر وقت بود شاید امروز این را به این خاطر میگم که بعد کسی بگه بله تحقیق شده این جسد اون جسد نیست چطور قرآن این را میگه قرآن بحثش با این جسده که الان به عنوان جسد فرعون شناخته میشه بحثش نیست این شاید باشه شاید نباشه ما این بحث را نمی کنیم ولی این بحث را که الله تعالی برای پشت سر پشت سر تاکی قرآن این را مشخص نکرتی برای پشت سریها عبرتی باشد و این کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون بسیاری از مردم از آیات ما غافل هستند باوجود اینکه این آیات وجود دارد که این آیات عبرتاً این آیات درستند اما مردم به این آیات توجه نمی کنند و از این آیات غفلتني شر بذلك. ولقد بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقُهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يوم القيامة في كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقراؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فَتَكُونَ من الْخَاسِرِينَ در آیات گذشته ذکر موسی علیه الصلاۃ والسلام و سعی و تبلیغ موسی و مقابله و مبارزی فرعون با موسی علیه الصلاۃ والسلام بود تا اینکه بعد از مراحل مختلف و بعد از این در مراحل مختلفی خدای تعالی بر فرعون مشکلات آورد مشقت آورد شدائد آورد تا برگردد اما او به سوی خدای تعالی بر نگشت و چون از هدایت محروم شده بود ایمان نصیبش نشد تا اینکه که را دنبال کرد تعقیب کرد بنی اسرائیل را و غرق شد بعد از اینکه غرق شد در زمانی که دست و در زمانی که جان می داد در زمانی که به بلا و گرفتار شد ایمان آورد اما چون ای ایمانش ایمان بس بود غیر مقبول بود ایمانش پذیرفته نشد و غرق شد بعد از اون الله تعالی می فرماید ما بنی اسرائیل رجای دادیم و لقد بنی اسرائیل مبوع صدق جای صدق و مبوع صدق اون جایی که جای عالیشان و زیشانی بود منظور شام هست. بعضیها شام و مصر هر دو را ذکر کردند. چون که مصر هم متعلق به بنی اسرائیل شد و اورسنا بنی اسرائیل. گرچه بنی اسرائیل انجام دنگار نشدند ولی هر چی بود مال بنی اسرائیل بود. و بعد از اون ورزقناهم من التیبات از طیبات و مالهای پاکیزه مالهای طیب و حلال بی انها دادیم منو سلواو سلوه و بقیه مطالباتی که انها داشتند تعالی بی انها عطا کرد همین هر طیبات هستند و الله تعالی بنی اسرائیل کتاب داد شریعت داد آین نامی زندگی داد اما بعداً بنی اسرائیل متفرق شدند بنی اسرائیل اختلاف کردند بنی اسرائیل راهای مختلف گمراهی را پیش گرفتند فمختلفو حتی جاءهم العلم آنان اختلاف نکردند حتی که علم آمد پیش انها یعنی اختلافشون منشه اختلافشان جهل نبود منشه اختلافشان نادانی نبود دید دانسته با وجود علم اونها اختلاف کردند الله و عید بیان می فرماید ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه رب تو بین اونها عملا فیصله می فرماید در روز قیامت در آن که اونها اختلاف داشتند بعد از اینکه این جریان تمام میشه جریان موسی و بنی اسرائیل خداوند خطاب می کند حبیبش را پیامبرش را گرچه اینجا خطاب به رسول الله هست ولی مراد امت هست چون خدا می اگر شما از آنچه که ما به تو نازل میکنیم شک داری پیغمبر که شک نداشت پیغمبر لمس می کرد وحی را احساس می کرد وحی را و متوجه بود که وحی الهی هست بر خود پیغمبر وه می آمد پس شک اگر بکند بقیه افراد می به این خاطر اینجا علامه قرطبی گفته که قال ابو عمرو محمد ابن عبد الواحد الزاهد سمعت الامامين دو امام نحو و دو امام بزرگوار اللغات فعلبا والمبرد یقولان امام سعالب و امام مبرد ابو العباس مبرد هر دو می گفتند که معنا ف ان كنت في شك ای قل یا محمد للكافر فان كنت في شك مما انزلنا الیک یعنی کسی که قبول ندارد، کسی که مخاطب است کسی که کافر است به او بگو که اگر شما شک دارید بروید از اهل کتاب بپرسید شون همین واهی با همین نوعیت با همین کیفیت بر اهل کتاب می آمده لذا اینجا خطاب رسول الله است ولی مراد دیگران است فان کنت في شك مما انزلنا اليك اگر شما در شک هستید از آن که ما نازل کردیم به شما فسال الذين يقراون الكتاب من قبلك سؤال کن بپرس آنها قبل میخان کتاب را لقد جاءك الحق من ربك همانا حق از جانب شما آمد فلا تكونن من الممترين هرگز هرگز از نباش ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله هرگز هرگز نباش از اون کسانی که تکذیب کردن آیات الهی را فتکون من الخاسرین در دار این از زیان کاران میشی لذا شک نکن مثل وحی موسی این وحی وحی هست این پیام استوی رب عالمیان هست اما ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنن آنانی که ثابت شده بر آنان کلمه رب کلمه رب چی؟ پایی نیش بینیسی بالعذاب کلمه تو رب بالعذاب یعنی اونایی که خداوند برای اونها وعده عذاب داده که باید عذاب داده بشند لا یومینون اونها ایمان نمی آورند هرچی شما شکشون را مرتفع کنی شکشون را برطرف کنی آنها ایمان نمی آورند ولو جاعت کل آیه اگر هر آیهی برای انها بیاوری باز هم ایمان نمی آورن حتی یرو العذاب الالم حتی که عذاب دردناک را ببینن یعنی معمولا عادت اقوام گذاشته اینه که عذاب را دیدند عذاب بر سر انها آمده بعدن ایمان آوردند تا زمانی که عذاب ندیدند ایمان نیاوردند. آوردند حال خدای تعالی اینجا وعید بیان می فرماید و توبیخ میکنه چرا قبل از عذاب ایمان نمی آوردن هنوز عذاب نیامده علائم عذاب را اگر کسی ببیند و ایمان بیارد هم کفایت میکنه چرا اون زمان ایمان نیاوردن فلولا این فلولا به معنی هست چرا نه کلمیه توبیخ هست اللہ فرماید که فلولا کانت قریتون ببینید الان ما خاندیم که فرعون زمانی ایمان آورد که حتی ازا ادرکه الغرق غرق او را گرفت یعنی عذاب غرق وقتی که آمد و آخرین لحظات را داشت می اون زمان ایمان آورد اینجا ببینید دو تا ایمان ما می خانیم در آخرین لحظات در وقت عذاب یکی مال فرعان یکی مال قوم یونس که الان شما می خانید مال فرعان پذیرفته نشد مال قوم یونس پذیرفته شد فرقش چیه و علتش چیه فرقش اینه که فرعان در حین عذاب این عذاب در حال دست, پنج دست نرم کردن یا دست پنج نرم کردن با عذاب ایمان آورد اما اینها به اون مرحله نرسیدند هنوز عذاب شروع نشده مالقه و هنوز عذاب شروع نشده که اینها ایمان آوردند خداوند می چرا بقیه اقوام ایمان نمی آورند مثل این قومیون یعنی حد دیگل همین وقت اگر ایمان بیارند هم ایمان به آنها نف می ده ایمان باعث نجات آنها میشه فلولا کانت قریتن اول ترجمه بفهمید فهمید فلولا کانت قریتن لولا به معنی هست چرا نمی آورد نیست قریهی که آمند ایمان بیاورد فنفعها ایمانوها پس نف بده به او ایمانش چرا ایمان نمی آورد؟ هیچ قریه ای اگر قوم یونس، مگر قوم یونس. یعنی استثنای مقتضی است. یعنی، لَكِنْ قَوْمُ يُونُسِ ایمان آورد. بقیه چرا ایمان نمی آوردند؟ ببینید، اینان مثل قوم یونس برای قوم هم آمد. برای قوم یونس چی آمد مگه؟ آبری آمد، آذب شکل آبر آمد. از دور که دیدند، اینها ایمان آوردند هنوز عذاب شروع نشده بود اما قوم عاد وقتی که حضرت حود وقتی که عبر را دیدند ما رأوه عارضا مستقبل عودیتهم عذاب را به شکل عبری دیدند که بروادی های انهاست بر آبادی انهاست قالو هادا عارض ممترنا اینا پایکوبی کردند خوشحال شدند گفتند که این عبری هست آمده به ما باران بده یعنی اینقدر از عذاب دور بودند اینقدر غفلت اصلا باور نداشت، اما قومیونوس نه یه مقدار احساس خطر کردند به ما اینکه دیدند داد و فریاد کردند گریه کردند توبه کردند خداوند همین میگه که چرا بقیه قریه ها این کار رو نکردن فلاولا کانت قریه چرا نبود الا كانت قریه امنت چرا نبود قریه دیگری که ایمان بیاورد و فنفعها ایمانوها ایمانش به او نف بده الا قوم یونس مگر قوم یونس ببین حضرت یونس علیه الصلاۃ درباره خودشون اطلاعات زیادی نیست که ایشون کی بودند کجا زندگی میکردند فقط در احادیث آمده که اسم پدرش بود یونس ابن مطّار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودم من یونس ابن می میبینم که جبهی پوشیده و دارب بیطرف کعبه الله میاد در عالم از کنم مثال برای تواف میاد. پس یونس ابن متا هست در این رابطه خیلی بحث کردند اسمش پنشش در جا در قرآن مجید آمده جریانش آمده داستانش آمده اما اینکه کجا بود چه زمانی بود نیست اون چیزی که بنده ارز میکنم تقریبا خلاصهی هست از آنچه که گرفته شده هم از آیات قرآن مجید از همین چند جای که تذکرش آمده و هم احادیث آن حضرت صلی اللہ علیہ و برخی نقل هستند از کتاب های بنی اسرائیل اولا بعضی معتقدند که یونوس جز انبیاء بنی اسرائیل بعضی معتقدند نیست ولی اون که معلوم میشه یونس علیه و السلام از بنی اسرائیل هست یونس علیه السلام در سال در سالهای تقریباً حفصد قبل از میلاد حفصد و اندی قبل از میلاد سيدنا عیسی علیه صلات و السلام ایشون تشریف داشتند پیغمبر بودند در دارالحکومت عراق اون زمان یکی هم از اسرائیلی ها از بنو اسرائیل پادشاه بود و حکومتی بنی اسرائیل در عراق داشتن دارالحکومه اون زمان نینوا بود یونس علیه السلام نزدیک در همون نینوا یا همون استان نینوا و دارالحکومت نینوا در شهری به نام موسلف که امروز مس موسلف عراق، اونجا مبعوث شدند و اونجا قوم را بیم دادند ترسانیدند. یونسال سلامت و السلام مردم را وعید دادند ترساندند تبلیغ کردند و میگویند نه سال تبلیغ کردند، نه سال. هر کردن کسی ایمان نیاورد و آخر یونس علیه الصلاۃ به قوم گفتن که عذاب خدا میاد اینا بازم باور نکردند طبق روایتی یونس علیه از طرف خداوند به اونها اعلام کرد که اگر ایمان نیاوردید تا 3 روز دیگه عذاب میاد و طبق روایتی تا چهل روز دیگه چهل روز بهش مهلت دادند اما یونوس علیه السلام خودش ترک کرد و رفت هنوز دستور داده نشده بود بسیاری معتقدند که حضرت یونوس اجتهاد کرد برداشت یونوس این بود که هر قومی که برای اونها عذاب می آمده تا زمانی که پیغمبر این قوم در میان قوم باشد عذاب نمی آمده. لذا پیغمبر باید ترک بکند یونوس گذاشت موسل را شهر را مردم را گذاشت و ترک کرد مردم هم نسبتاً جمعیت زیادی داشتند که قرآن میگوید که هزار نفر یا بیشتر از هزار نفر الف مئت او یزیدون مئت آمن ببخشید ف ارسلنه الی او یزیدون بسد هزار یا بیشتر سد هزار لذا یونس علی الصلاۃ ترک کردن بعضی روایت ها اینطوری که یونس علی الصلاۃ هرچی به قوم گفت که ایمان بیارید ایمان بیارید ایمان نیاوردن آخر بد دعا کرد و ناراحت شد و شهر را ترک کرد یعنی بدون اینکه خدا بهش گفته بشه قهر کرد ناراحت شد گفت بس من میدم تا خدا بهش شمار عذاب بده اما چون دستور نگرفته بود از خداوند عزوجل رفت رفت و کناره رودخانه ایستاد از اونجا سوار کشتی شد و کشتی میرفت در وسط دریا یونس علیه السلام می‌رفت که از بخدمت شما موج آمد و کشتی را تکان داد اهل کشتی را ترساند و نوی تحدید بود ناخدای کشتی گفت که معمولا این نوع موجها زمانی میاد که کسی اون مردم هم چین رسوماتی هم داشتن کسی آغایش را کسی اربابش را ناراضی بکنه بدون اجازه بره کشتی این حالت را پیدا میکنه در میان شما چه کسی هست یونس علیه السلام با خود فکر کرد متوجه شد که کسی که این علائم را دارد خودم هستم بدون اینکه خدا راضی بشه بدون اینکه خدا دستور بده من موسیل را ترک کردم یونس اعلام کرد که او منم اما آل کشتی وقتی که وقار یونس را متانت یونس را ظاهر و صلاح بودن یونس را دیدن اونا گفتن نه شما نمیتونید این فرد باشید کسی دیگه هست یونس گفتن من هستم خلاصه قرکشی کردن اندازی کردن اندازی را هم قرآن ذکر کرده که اونا قرکشی کردند نام یونس در آمد سه بار قرکشی کردن هر سه بار اسم یونس در می آمد لذا یونس گفتم منم بلاخره یا یونس را انداختن یا خود یونس از اونجا پرید خدای تعالی به ماهی دستور داده بود که یونس را امانت نگه دارد غذایش نیست که حزمش بکند در شکمش امانت نگه دارد اون ماهی هم منتظر بود به محض اینکه یونس پرید تو دریا رفت در شکم ماهی قرار گرفت و بعد مدتی در شکم ماهی بود اونجا یونس علیہ السلام احساس کرد که خداوند ناراضی شده خداوند راضی نبوده بر این رفتن اونجا این تسبیحاتی که قرآن میگه یونس, یونس خاند اونجا شروع کرد لا اله الا انت سبحانك انی کنتو من الظالمین بار بار خاند بار بار معذرت خواهی کرد تا اینکه که خدا تعالی به ماهی دستور داد معلوم میشه که کاملا وقتی گذشته بود زمانی گذشته بود چون که در روایت همیت زمانی که یونس را بیرون انداختند ساحل انداختند بدن یونس هیچ موی برو نمانده بود مثل یه پرندهی که تازه از تخم خارج شده و هنوز پر و بال ندارد و فقط تکه گوشتی هست که گوشت نرمی هست که زود از بین میره یونس علیه الصلاۃ تمام بدنش اینطور گوشت نرمی شده بود و حال نداشت می کرد تا اینکه خدای تعالی برایش تدبیر کرد برایش یک بوته‌ای که درختی گفته شده اما درخت بدون تنه برگهای داشت بیشتر میگویند که درخت کدو هست یا همون بوته کدو هست او را خدا گذاشت و بعضی از علماء خواستی هم در اون گفتند او وقتی که باشه مگست نمیاد بالاخره درخت کدو را خدا تعالی برای او رویاندیر و یونوس علیه السلام زیر سایه او رفت زیر ابرهای او رفت و تا مدتی این را خدای تعالی برای شفایی کرد کم کم حال گرفت کم کم حالش بهتر شد و می این هم از اسرائیلیات هست لا نصدق و نکذب ولی خب در این نکته هست درسی هست می گویند یونس علیه السلام همین زمانی زمان آخر وقتی که دید که ریشه همین درخت و تنه‌ی این درخت همین درخت همون کدوی که بود کرم زده بود و کرم داشت خرابش کرد و از این خشک بود یونس خیلی پریشان شد خیلی ناراحت شد بر این کدو این کدوی که به دردش خورد این کدوی که او را کمک کرد الله تعالی وحی کرد که ای یونس شما از این کدوی که مقدار کمی نفعی به رسید ناراحت شده که کرم داره او را خورد و از خرابی او از فساد او که فاسد میشه و نابود میشه از بین میره ناراحت شده جوش زدی و راضی نیستی که این از بین بره راضی نیستی که این فاسد بشه خب اون بندگان من که یکی نیستند دو تا نیستند صد هزار تا هستند اونجا اونها وقتی که مثل همین بوته و مثل این کدو کرم زدند اونها وقتی که فاسد شدند اونها را شرک و کفر داره خراب میکنه من پروردگار چطور راضی بشم که اونها نابود بشند اونها علاق بشند لذا وقتی که اونها بر میگردم، من بیشتر از اونها برمیگردم میگردم اونها وقتی رجوع میکنند منم رجو میکنم من هم عذاب را اثر اونها بر میدارن. چون من رب راضی نیستم که بندگان من فاسد بشم و در حالت فساد از بین برون الا ای حال این داستان یونس است از اون طرف داستان قوم را خدمت شما عرض می کنم که قوم وقتی که با هم گفتن که یونس که ما را می تر سنت از عذاب خدا اگر واقعا عذاب در کار باشد یونس خودش میره خب واقعا یونس اگر بدون که عذابی هست هیچ وقت اینجا نمیمونه که خودش هم گرفتار بشه. ازا اگر یونس اینجا مند در میان ما معلوم میشه که همین طور بی میگه، بیدلیل میگه، باور نمیکنیم. اگر یونس ترک کرد اینجا را معلوم میشه که خبرایی هست، پس باید فکر بکنیم. وقتی که يونس علیه سلام ترک کرد و شهر را رفت، قوم پریشان شد، ناراحت شد، با همدیگه مشوره کردند. با همدیگه مشوره کردن گویا به فکر بودن این همون انابت است همون طلب است زمانی که علامت را دیدند زمانی که اون ابر را مشاهده کردند لذا اینها دستپاچه شدند اینها پریشان شدند رفتند پیش رئیسشون پیش پادشاه پادشاه رفتند و گفتن چیکار بکنیم سراسیمه بودن بیتاب تاب بودند پادشا گفت بریم خونه یونس از یونس بخوایم که شفاعت کنه سفارش کنه پیش خدا که ما اشتباه کردیم ما همی ایمان میاریم، گفتن یونس نیست یونس رفته پادشا آدم عاقل و فهمیده ای بود گفت پس چیکار میکنیم همه میریم میدان شهر حیوانات را بیارید بچه ها را بیارید مادرانشون را بیارید حتی گفت حیوانات را از, ب... از بچه هایشون و بچه های حیوانات را از مادرانشون جدا کنید تا اینها اونجا گریه کنند برای هم دیگه و همه شما گریه کنید داد و فریاد بکنید تا خدای تعالی رحمش بیاد و ما را عذاب نده ما اشتباه کردیم لذا همه این کار را کردن اونجا داد و فریاد گریه و زاری سبحان الله شما ببینی وقتی که چینی سحنهی باشد خدا تعالی بدنگانش را عذاب میده خدای مهربان خدای روف و رحیم لذا اینها وقتی که گریه کردن الله تعالی عذاب را دور کرد گفتن خدا ما اشتباه کردیم ما به دستورات یونس عمل می کنیم هرچی به ما گفته از این به بعد عمل می کنیم. دیگه طور ناراضی نمی‌کنیم دیگه بت پرستی از عذاب دفع شد اون ابر برگشت وقتی که برگشت اونجا یونس علیه حالش بهتر شد خوب شد الله تعالی یونس دستور داد برگرد اون روزا به اون شر و اون مردم را راهنمایی کن ارشاد کن یونس علیه هم برگشت قوم خوشحال شدند همه آمدند به دست یونس بیعت کردند و بعد از اون به احکام خدا به دستورت خدا عمل کردند تا مدت مدید دیگری زنده ماندند چنانچه قرآن بیان فرموده لذا اینجا الله تعالی همین بیان می‌فرماید این داستان چون حائز اهمیت هست و چون واقع قابل توجه هست این سوره نامگذاری شده به نام سوره یونس لذا ترجمه طور که ارز کردم لولا به هلاست چرا نهست؟ فلولا کانت قریه امام رازی اون ترجمه کردم همون ترجمه را بر اساس اون تفسیر کرده لولا کانت قریه ای هلا کانت قریه واحده من القرى التي یعنی چرا قریه یک قریه از اون قریه هایی که ما حلا کردیم چرا توبه نکرد؟ هلا کاند قریه تابت عن الكفر و اخلصت في ایمان چرا از کف توبه نکرد و در ایمان مخلص نشد قبل معاینة العذاب قبل از اینکه عذاب را ببیند فقط الائم اشارات چرا ایمان نیاورد؟ الا قوم یونس ولیکن قوم یونس لما آمنوا فعلنا بهم کذا و کذا وقتی کنها ایمان آوردن ما با انها این اين این رفتار را کردیم یعنی انا را بخشیدیم لذا اللهمی فرماید لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنيا زمانی که انها ایمان آوردند دور کردیم از آنها عذاب رسوایی و عذاب ذلت بار را در زندگی دنیا و هم الالحین و ما بهن متاع دادیم متا یعنی بحرگیری از زندگی و امکانات زندگی به آنها متاع دادیم فرصت بهرگیری دادیم الالحین تا مدت دیگر این مدت دیگر کی هست الى تا زمانی که هر یکی اجلش و موتش فراری وسیل ولو شاء رَبُّكَ لَا آمَنَتْ في فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اینجا تسلی برای رسول الله است اگر قومتو بعضی ایمان نمی آورند ناراحت نباش من شئ خدا نیست اگر خدا بخواد همه ایمان میاورند ولو شاء رَبُّكَ رَبِّت بخواد همه ایمان میاورند پس چرا نمی ما قبلن این سوال و جواب را خاندیم ولیکن لیبلو چون خدا میخواد که بیازمایت خودشون با رضایت و خوشی خودشون ایمان بیارن نه ایمان جبر ولو شاء رب لَا آمَنَ في فِي كلهم جميعا جَمِيعًا اگر ربت بخواد ایمان بیارند تمامی کسانی که در زمین هستند همگی افغان تطکری هن ناسه حتی یکون مو مینی بیبی اگه ایمان بیارند این ایمان میشه ایتو مجبور بیکونی مردم را ایمان بیاره خدا این ایمان اکراه را نمی پذیرد خدا دوس ندارد که با اجبار و با اکراه ایمان بیارند و ما لنفس ان تؤمن الا بإذن الله در حالی که برای هیچ نفسی نیست که ایمان بیاورد مگر اذن الله بمشیئت الهی یعنی با اجبار خدا نمیخواد نمیکنه و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون گاندرا مراد از رجس گاند چی شرک شرک را خداوند نصیب میکند بر کسانی که ایمان نمیآورند یعنی اونها در بر کسانی که عقل ندارند یعنی درک نمیکنند دین را لا يعقلون فاينش نیست دین را یعنی کسانی که دین را درک نمی متوجه نمی نصیب اونها چی هست؟ ایمان نیاوردن شرک کردن قل انذرو ماذا فی السماوات والارد اینجا الله تعالی بر اناد کفار و بر زدیت کفار سرزنش میفرماید و زجر بیان می که ببینید در آسمان ها و زمین چقدر از آیاتی که دال هستند بر قدرت و بر توحید خدا از این آیات وجود دارند قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون یعنی انظار يا پیامبران و آیات فائده نمی رسانند و دف نمی کند از قومی که ایمان نمی آورد اندان چیزی را دفن نمی کند یعنی به آنها هیچ نفعی نمی رساند. فحلی منتظرونه، آنها چکا منتظر چی هستند؟ چرا ایمان نمیارند؟ چرا به تبلیغ انبیا توجه نمی کنند؟ چرا این تبلیغ انبیا هیچ نفعی به آنها نمی رساند؟ چون که فحلی منتظرونه این تخویف و است. آنها منتظر نیستند، الا مثل ایام اللذین خلو من قبلهم مگر مثل روزهای کسانی که گذاشتن قبل از اینها، یعنی برای اونها عذاب آمد، برای اونها مصیبت آمد، اینهایی ای که ایمان نمی آورند منتظر همون مصیبت هستند. قل انتظارو انی معکم من من المنتظرین. ای کسانی که شما شرک گرفتارید و ایمان نمی آورید منتظر باشید. من هم با شما منتظرم برای شما آزار بیاد. و وقتی که بیا، ثم ننجی رسولان و اللذین کذالک ما نجات میدیم. پیامبران خودمون را فرستادگان خودمون را و مؤمنین یعنی سنت الله این هست، عادت الله این هست. کذالک هم چین مؤمنین را هم نجات میدیم. حقا علینا ننجی المؤمنین. این یک حقی هست بر ما. پاینش نهایت این به فرم تفضلان لا جبران. یعنی حق وجوبی نیست حق جبری نیست خدا خودش بر عهده خودش, خودش قرار داده فضل خداست حق علینا ننجل مؤمنین که ما مؤمنین را نجات می دهیم خب پس ببینید بعد از اینکه در اول این سوره مبارکه یونس شما دلائل اقلی زیادی خاندید بعدان دلائل نقلی خاندید تا دلیل نقلی بود یکی از پیامبر خدا نوح علیه السلام دوم دو از موسی و بنی اسرائیل سوم سو از یونس و قومی یونس حال بعد از این همه دلائل عقلی و نقلی در پایان سوره الله تعالی به صورت شفاف و عاشقاره توحید را بیان می فرماید اصل مسئله را بعد از دلائل قول یا ایوها الناس اعلام بفرما ای مردم ای انسانها ها ان کنتم فی شك من دینی اگر شما در شک هستید از دین من از آین من از اسلام از این دین توحیدی بشنوید شما اعلام بادا مسلک و مذهب من اینه فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله بس من عبادت میکونم آنها یہ کہ شما عبادت میکنی بجز الله انس لا اله ولكن اعبد الله انس الا الله ان نث بودین چی اثباته ولكن اعبد الله اما من عبادت میکونم الله را اون الله كاللذي يتوفاكم اون كي جان شمارا ميقراد اون الله كي موت شما شمار بدست اوهاست من فقط اونيك معبود را عبادت ميكونم و امرت ان اكون من المؤمنين و من امر شدم شدم من جان الله اون من از مؤمنين باشم اینکه من به او ایمان بیاورم و همچنین امر شدم و ان اقیم وجهک لدین حنیفا این ادفس بر ان اکونه یعنی عمر تو ان اقیم دستور به من صادر شده از سوی الله به من گفته شده ان اقیم وجهک لدین حنیفا اینکه چهرت ترا زاتت ترا وجودت ترا برای دین خدا قائم کن برای دین خدا خالص کن اون دینی که حنیفن یک سوح از ادیان باطل یعنی بر دین توحیدی حنیفن یعنی چه یعنی به من دستور داده شده وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هرگز هرگز نباش از مشرکان از آنانی که به خداوندی عزوجل چه در ذات خدا چه در صفات خدا شریک میگیرند لذا به این دلیل هست که من هیچ وقت به ادیان دیگر به سمت سوی دیگه توجه ندارم فقط به سمت الله ولا لا تدعو من دون الله این دلیل فلا اعبدو هست. چرا غیر خدا را عبادت نمیکنی چون غیر خدا اصلا نه نا نفع میده نه می میده می اگر عبادتش نکنی zarar نداره اگر عبادتش بکنی هیچ نفعی نداره والمانا لا تدعو انسان من دون الله ما لا ينفعك الى آخره پس ولا تدعو من دون الله فرياد نزن دعانك النخان غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك آن معبودانك هیچ نفعی بتو ندارند عبادت انها ولا يضرك و هیچ زرری ترک انها ندارد نفع زرری شنه هیچ چیز فإن فعلت اگر انکار را انها خاصی حاجت طلبی دی یا فلان یا فلان انصرنی ادرکنی خذ بیدی از اینها اگر گفتی اگر این کار را کردی فاین فعلت اگر این کار را انجام دادی ای ذلک من دون الله فانك اذن من الظالمین همانا تو در این هنگام از هستی یعنی از مشرکین استثم جاری بر خود ستم کردی ظلم کردی والدليل دیگر، علت ديگر به اين دليل كه و اي يمسسك الله بدر فلا كاشف له الا هو اگر بتو ضرري برسد اگر الله بتو ضرري برسانت بتو عاصي بي بذهد السوي الله بتو مشکل پیش بیاید فلا کاش له هو دور کننده او اونیس هو بجز الله خود الله دورش میکنه دیگه هیچ کسی دور نمیکنه و این یورید خیرین فلا راد لفضله اگر الله نسبت به تو اراده خیری بکند دور کنندی وارد فضل او هیچ کسی نیست کسی نمی تواند جلوی خیر او را بگیرد یسیبو بهی من یشاء من عباده الله می رساند به هر کسی که بخواد از بندگانش هر خیری می هر عجری می و الغفور الرحیم فقط اون ذات هست هم بخشایند و هم هست زو کسی نیست لذا بعد از اینکه دلائل توحید بیان شد بعد از اینکه دلیل ولا تدع من دون الله آمد بعد از اینکه دلیل قل يا الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يوفاكم دليل انك آمد هل الله تعالى مجدد ترغیب میدی سوی توحید در پای این سوره یعنی خلاصه دعوت الله اینه خلاصه مراد رب مهربان اینه قل یا ایها الناس هر جا کتاب با ایها الناس بود ای مردم ای انسانیت قد جاءکم الحق من ربکم همانا حق آمده یعنی قرآن آمده از جانب ربشما این حق این بهترین راهنما است این بهترین مشعل راه است قد جاءكم الحق من ربكم حق از جانب رب شما آمده فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه هر کسی هدایت شد هر کسی راه قرآن را گرفت فإنما يهتدي لنفسه و هدایت شده برای نفس خودش یعنی یعود نفعه الی نفع این هدایت سود این هدایت به خودش برمی گردد اما ومن ضل هر کسی که رای گمراهی را انتخاب کرد و رای شرک را انتخاب کرد فانما انما عليها جز جزی که گمراه شده هم بر علیه خودش هست یعنی یعود ضرره یا ضرره الی عصیبش ضررش بر خودش هست وما انا علیكم بوکیل من محمد بر شما وکیل نیستم یعنی زامن نیستم یا یعنی مختار نیستم اختیار ایمان شما به دست خودتو به دست من نیست پس شما ایمان را توهید را راه سواب و صلاح را انتخاب, را را انتخاب کنید راه گمراهی و کجر انتخاب نکنید تبع ما یوحا ایلیک ان دلیل وحی است دنبال کن اون چیزی که وحی میشه تو وصبر سابر کن یعنی yani پیرو قرآن باش پیروه وحی الهی باش و در این موضوع در این باب استقامت کن وصبر حتی یحکم الله حتی که خداوند فیسل کند داوری کند به نصرت خدا فیسلی نصرت بکند و هو خیر الحاکمین بهترین فیسل کنندگان الله است. پس سابر کن منتظر فیصله الله باش این بود سوره مباركه يونس که قبلا دلائل عقلي هم شما قنديد بعدن دلائل نقلي آخر خلاصه همه اين دلائل این در فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن الله همین فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله معنايش بود لا اله الا الله هیچ معبودی که من عبادت کنم وجود ندارد به جز الله دلایل این را هم قاندیم جمعه امسسک الله بدر فلا كاشف له الا هو